نوار شماره یک کتابه گاتها یا سرودهای آسمانی زرتوشت به قلم موبد فیروز است. ناشر مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فروهر چاپ دوم سال 1379 تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی تهران به تاریخ تیر ماه 1385 گوینده مرجان رسولی تکثیر کننده بهرام حامدیگو با بررسی الله ساکی فهرست مطالب گات ها یا سرود های آسمانی زرتشت با ذکر حات ها یا فصل ها گات ها، حات ها، تعداد حات ها، تعداد بند ها، ذکر صفحه ها احون ودگات از حات بیست و تا سی و هفت حات یا فصل صد و ده بند به اضافه یک بند سرآغاز. از صفحه بیست و هشت تا 61، و یک بدگات از حات چهل و سه تا چهل و شش چهار هات یا فصل شست و شش بند از صفحه شست و دو تا هشتاد و پنج از حات چهل و هفت تا پنجاه چهار حات یا فصل چهل و یک بند از صفحه هشتاد شش تا نوود و هفت وهم خشترگات هات پنجاه و یک فقط یک هات یا فصل 22 بند از صفحه 98 تا 104 و هیچ تو آیشت گاد هات 53 فقط یک هات یا فصل 9 بند از صفحه 105 تا 108 پیشگوتار از صفحه یک تا صفحه بیست و هفت جمع صد و چهل و هشت بند به اضافه یک بند سرآغاز. صفحه یک پیش گفتار نظر به این که جلد اول و دوم کاتاها سرودهای آسمانی اشوزر تشت کنگارنده نگارنده برای ترجمه آنها سالهای بسیار رنج برده کتابهای قطور و گران قیمتی هستند که خرید آنها برای همه علاقمندان امکان پذیر نیست. و از آنجایی که اطلاع و آگاهی از متون سرودهای مذکور و بکار بردن دستورهای اخلاقی و آموزشهای سودمند و خشور بزرگ ایران در زندگی، نه فقط برای افراد زرتشتی به طور اخست بلکه برای تمام مردم جهان به طور اعم بسیار واجب است. بنابراین آن شدم که تنها ترجمه کامل و آزاد هفته ها یا فصل گاتاها را یکجا در این کتاب آورده و آن را در دسترس علاقمندان قرار دهم. باشد که از این راه خانندگان محترم، پی به محتوای سرودهای آسمانی زرتشت برده درس زندگی و انسانیت را از آن آموخته در ساختن جهانی آباد و آزاد و پیشرفته به جدیت و کوشش پردازند و در تأمین خوشبختی و آسایش بشر همت کمارند. زمنا برای آنکه خانندگان ارجمند از مفهوم گاتاها و مندرجات آن و همچنین از سراینده آنها اطلاعی داشته باشند، سعی خواهد شد به طور مختصر و فشرده در زیر آورده شود. گاتاها از لحاظ مفهوم به معنی سرودهای آسمانی است و با واجه گیتا که سرودهای مقدس هندوهاست مترادف می باشد. گاتاها دارای هفته هات یا فصل می باشد که چون نگینی در میان انگوشتر یسنا قرار داده شده است و به پنج بخش تقسیم گشته است که عبارتند از احونود، اشتبد، سپنتومد، وهم خشتر و وحیشتوا یشت. احون از حات بیست و هشت یسنا شروع و تا حات سی و چهار ادامه دارد. جمعاً هفت فصل بوده و به نام یشتگاهان نیز معروف است که معمولاً هنگام انجام مراسم پرسه ختم توسط موبد خانده می شود. ودگات دارای چهار فصل بوده از هات چهل و سه یسنا شروع و به حات چهل و شش خاتم میابد. سپنتومدگات نیز دارای چهار فصل میباشد که از حات چهل و هفت یسنا شروع و به حات پنجاه خاتمه میابد. وهم خشتر و وحیشتوا یشتگات هر یک دارای یک فصل میباشند که حات پنجاه و یک یسنا را وهم و حات پنجاه و سه را و هیشتوهایشت می نامند گاتاها به زبان عوستایی بسیار کهن سروده شده و از لحاظ قدمت با ریگ و هندوها برابری می و از سخنان خود اشوزر تشت می باشد هرگاه بتوانیم زمان گاتاها را تعیین کنیم زمان اشوزر زرتشت سراینده این سرودهای نغز را نیز می توان تعیین کرد متاسفانه با سوخت شدن کتابخانه یعظم شاهی در تخت جمشید به دست اسکندر مقدونی و از بین رفتن باقیمانده مدارک دینی زرتشتیان در اثر حملات اعراب و یورش و هجوم قوم مغول به این سرزمین امروز مدرک و ماخذی که بتوانیم تاریخ زرتشت و گاتاها را به طور دقیق بیابیم در دست نیست به همین علت راجع به پیغمبر ایران تا به حال عقاید و نظرات مختلفی ابراز شده است که از بین آنها راجع به سه نظر بحث خواهم کرد نظریه اول تاریخ سنتی است که زمان زرتوش را 300 سال قبل از حمله اسکندر به ایران و یا حدود قرن ششم میلادی دانسته است ولی این نظریه امروز به کلی مردود شناخته شده است به علت اینکه زبان عوستایی گاتاها با فرس باستان حخامنشی هیچ گونه شباهتی ندارد و از آن گذشته هیچ کدام از شاهان حخامنشی ذکری از نام پیمبر ایران نکردند به علاوه گشتاس به کیانی یاور و پشتیبان اشوزر تشت پادشاهی مقتدر و نیرومند بود در صورتی که گشتاس به که در حدود قرن ششم قبل از میلاد میزیست، پدر داریوش بزرگ و فرمانروای کوچکی بیش نبوده و تقریبا به طور گمنام زندگی می کرده است. چنانکه داریوش در سنگ خود هیچ عنوانی برای پدرش ویشتاس قائل نشده است ولی خود را شاه شاهان می نامد، نظریه دوم گفته های یونان است که زمان زرتوش را حدود شش هزار سال قبل از میلاد ذکر کردند. این نظریه نیز به علت فقدان مدارک مستند و کافی طرفداران زیادی ندارد. نظریه سوم عقیده عوستاشناسان و دانشمندانی است که زمان عشو زرتوش را یک تا 1750 سال قبل از میلاد دانستند. یعنی زمان زرتوش را کمی پایینتر از زمان ریگوید شمردند. ولی در بین شناسان تنها نظریه پروفسور میلز که کمال اهمیت را دارد برای اطلاع خانندگان در زیر نقل می نماید، سالها پیش تصور می کردم زمان پیامبر ایران نباید بیش از 1500 سال قبل از میلاد باشد. ولی بعدها در اثر مطالعه زیاد متوجه شدم که هر چقدر زمان زرتوش را از 1500 سال قبل از میلاد هم عقبتر ببریم منطقی تر خواهد بود زیرا هرگاه زبان گاتاها را قبل از پرستش مهر بدانیم می این کتاب آسمانی را کوهندترین مجموعه خطی بدانیم که به ما رسیده است. ولی با توجه به کلیه حقایق مخصوصا تاریخ گذشته ایران و تغییراتی که در زبان آریایی به چشم می‌خورد و عدم وجود و هوم در گاتاها دویزدی که در اوستای متأخر و ریگوید مشترک بوده و به تفصیل از آنها بحث شده نشان می‌دهد که سالیان بسیار بسیار درازی طول کشیده است تا کیشی که خالی از هر گونه موهوم و خرافات و تعصب و آلودگی بود تنزل کرده و به صورتی درآید که در مهرپرستی و آین هوم رواج داشت. به طور مسلم و بدون تردید ایزدان مشترکی که در یشتها و ریگوید ذکر شدهاند بسیار کوهن می باشند. اگر زمان گاتاها را قبل از پرستش ایزدان مذکور بدانیم چون در متن سرودها هیچ ذکری از آنها نشده است پس تاریخی برای قدمت گاتاها نمی توان تعیین کرد ضمناً پروفسور رامپیس دانشمند آلمانی در این مورد می نویسد در سرت و سر گاتاها با وجود اینکه بیش از دویست بار از خداوند یکتا نام برده شده است، اغلب به صورت مزدا اهورا یا به صورت تفکیکی مزدا و اهورا می باشد. در صورتی که در سنگ نوشته های حخامنشی، همیشه نام خداوند جان و خرد، اورمزد و اهورا مزدا ذکر شده است، این موضوع نشان می‌دهد سالیان دراز و یا در حقیقت گذشت چند هزار سال لازم بوده است تا نامی را که مورد توجه و استفاده همگان بوده و هر روز مردم از آن یاد می‌کردند تغییر شکل و ماهیت بدهد یعنی از صورت مزدا اهورا به شکل اهورا مزدا و اورمزد درآید تحول زبان به شکل مضبور خیلی به ندرت و آن هم بعد از گذشت قرنها امکان پذیر است. با توجه به نظریه پروفسور رامپیس و پروفسور میلز و تلفیق این دو عقیده با هم میتوان گفت زمان اشوزر زرتشت و گاتاها در حدود سه هزار تا سه سال قبل از میلاد بود است. در هر حال اشوزر توشت به هر زمان و مکان و محیطی تعلق داشته باشد مایه افتخار ایران و سربلندی ایرانیان است. زیرا اولین آموزگار و رهبری بود که بشر را به سوی یک و راستی ارشاد فرمود. در این مورد باز هم سخن خواهیم گفت. اما گاتاها همانطور که در بالا ذکر گردید دارای هفته فصل بوده و هر کدام از گاتها دارای وزن و آهنگه بخصوصی است که بدون کم و کاست به دست ما رسیده و از دست حوادث روزگار ایمن مانده است. علت آن نیز به نظم بودن این سرودهاست که بهتر در حافظه ها مانده است. برخی از گاتاها دارای سمسره شانزده سیلابی، و چهل و هشت سیلابی و برخی هم دارای شش مصرع دوازده و هشت هجایی می باشند. به طور مختصر می توان گفت کهانترین، نقضترین، پرمغزترین، اندیش برانگیزترین، والاترین و مطمئن ترین بخش اوستایی را گاتاها تشکیل می دهند. اکنون ببینیم گاتاها، راجع به چه موضوعهایی بحث می کند مهمترین و عمدهترین بخش گاتاها به یکتا پرستی طرز شناخت پروردگار یکتا و توضیحاتی راجع به مزدا اهورا هستی بخش یکتا و دانا و راه رسیدن به او اختصاص داده شده است در گاتاها با سراحت تمام اشوزرتوش را نخستین آموزگار بشر و مبشر یک تا پرستی مطلق می شناسد در بند نهم از هات چهل و شش ودگات می کیست آن رادمرد بزرگ و نخستین آموزگاری که به ما آموخت تنها تو را ای پروردگار شایستهترین ترین ذات مورد ستایش بشناسیم و تو را داور پاک کردارها و سرور راستی بدانیم به طور مسلم این رادمرد بزرگ کسی جز وخشور بزرگ ایران نمی باشد که در سه سال قبل از میلاد برای ارشاد بشر به سوی یک تا شناسی شد. در زمانی که موهوم و خرافات و جهل و نادانی سراسر ایران را فرا گرفته بود و خدایان پنداری بیشتر مورد توجه و احترام بودند، و نیازها و فریه های خونین برای جلب رضایت آنها انجام میشد اشو زرتشت مردم را به پرستش یکتا خداوند بی همتا و آفریننده کائنات دعوت فرموده و تنها او یعنی مزدا، هستی بخش دانای بزرگ یا خداوند جان و خرد را سزاوار ستایش و پرستش می شمرد. و در بند یازده از حات چهل و چهار یسنا چنین فرمود. پروردگارا می‌دانم که تو مرا برای انجام این کار بزرگ به عنوان نخستین آموزگار برگزیده ای؟ زرتشت به عنوان نخستین آموزگار بشر برای ارشاد مردم به سوی یک تاشناسی و راستی برگزیده شده است و خود را موظف می‌داند. تا در انجام این کار بزرگ که جز ارشاد و رهبری مردم جهان چیز دیگری نیست، منتهای کوشش خود را بنماید. در تعیید این گفتار که اشوزرتوشت، اولین آموزگار و مبشر یکتا پرستی در جهان بوده است، در بند سوم از هات بیست و هشت احنودگات ای هستی بخش دانا، ای آشا و ای وهمن، یعنی مظاهر راستی و پاکی، اندیشه نیک و مهرورزی به مردم. اکنون سرودهایی میسرایم که پیش از این کسی نسروده است. همچنین در بند اول از هات سی و یک یسنا آمده است که ای جویندگان دانش، اکنون آموزش ها و پیام هایی را که تا به حال شنیده نشده است، برای شما آشکار خواهم ساخت. این بند به خوبی نشان می دهد که قبل از عشوزر توشت، کسی به عنوان آموزگار و رهبر بشر ظهور نکرده بوده است. زمنن برای شناخت پروردگار یکتا می فرماید به دیده دل رجوع کنید، زیرا، فهم و درک که خداوند یکتا از راه اندیشه امکان پذیر نیست. چنان که در بند هشتم از حاط سی و یک یسنا آمده است. ای خداوند جان و خرد هنگامی که در اندیشه خود تو را سراغاز و سرانجام هستی شناختم، با دیده دل دریافتم که توی سرچشمه منش پاک. که توی آفریننده راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری کنی. و در تایید این موضوع باز در بند هشتم از هات چهل و پنج اشت ودگات چون اهورامزدا را با دیده دل دیدهام، کوشش خواهم کرد با سرودهای ستایش توجهش را به سوی خود جلب کنم. با اندیشه و گفتار و کردار نیک و در پرتوه راستی و درستی دریافتم که اهورا هستی بخش دانا و پروردگار یکتاست. بنابراین نیایش قلبی و ستایش خود را به بارگاه مقدسش نیاز می کنم. در این بند با کمال روشنی اشوزرتوشت زرتشت مزده را تنها هستی بخش دانا، و پروردگار یکتا دانسته و او را سزاوار نیایش و ستایش قلبی میداند. برابر اوشت ودگات هات چهار اشو زرتشت به طور شاعرانه اهورا مزدا را آفریننده زمین و آسمان و آب و گیاه و حیوان و انسان و خورشید و ماه و ستارگان و کرات درخشان آسمان دانسته و او را آفریننده کلیه کائنات و همه هستی ها و تنها سزاوار ستایش و پرستش میشمارد. صفاتی که در گاتاها برای خدا آمده است، عبارتند از ازلی و ابدی، سرانجام و سراغاز، بالاتر و برتر از همه، فروغ بیپایان، روح محض، همیشه حاضر و ناظر بر اعمال بندگان خیش، بخشنده و بخشایشگر و مهربان، تغییرناپذیر و جاودان، از همه چیز آگاه و دانا، توانا بر همه کار، تیزبین و دوربین، بدون شریک و بی همتا، فریفته نشدنی، پدر و دوستی مهربان و سمیمی، نکته ای که در گاتاها بدان اشارات مکرر شده است، الهامی بودن سخنان اش و زرتشت از جانب اهورا مزدامی باشد. امید است کسانی که ناآگاهانه وخشور بزرگ ایران را فیلسوفی بیش نمی دانند، به موارد زیر توجه نمایند. در سراغات اهون ودگات چونین آمده است؟ سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشوزر تشت، است از سوی خداوند یکتا که انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می کند. و در بند یازده از هات بیست و هشت یسنا ای آفریننده بزرگ و دانا، از راه خرد و بینش و الهام راز پدید آمدن آفرینش را از روز ازل به من بیاموز تا حقیقت را به مردم جهان آشکار سازم. در رابطه با الهامی بودن سخنان اشوزرتوشت در گاتاها اشارات زیادی شده است که نگارنده یک مورد دیگر را ذکر و سپس توجه خانندگان محترم را به نکات دیگری که جنبه اخلاقی و حیاتی دارند معطوف خواهم ساخت. در بند سوم از هات یک یسنا آمده است که ای خداوند خرد مرا از تمام این حقایق آگاه و با گفتار الهام بخش خود مرا روشن نما تا همه مردم را به آیین راستی ارشاد کنم یکی از مواردی که گاتاها بر آن تاکید بسیار دارد و از اصول مهم کیش یسنا به شمار می آید موضوع آزادی افراد در اختیار راه نیک و بد و گزینش دین خود می باشد چنانچه دربند در بند دوم از هات سی اهونودگات چنین آمده است ای مردم بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و جرف بینی آنها را بررسی کنید. هر مرد و زن راه بد را شخصا برگزینید. پیش از فرارسیدن روز واپسین همه به پاخی زید و در گسترش آین راستی بکوشید. و باز در بند یازده از حات سی در همین مورد میفرماید ای خداوند خرد. هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخنگفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هرکس به دلخواه و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. مسلم است با وجود چنین آزادی، افراد در مقابل عمل نیک و بد خود مسئول بوده و برابر گاتاها در روز واپسین کسی از آنها شفاعت نخواهد کرد. بلکه طبق بند پنج از هات چهل و سه اهورامزدا ودگات، اهورا مقرر فرموده است که بدی از برای بدان و نیکی از برای نیکان خواهد بود. یا به عبارت دیگر از مكافات عمل قافل مشو گندم از گندم بروید جو زجو. برای هر کار نیکی پاداش و برای هر کار زشتی کیفر مقرر گردیده است و قانون عشا یعنی کنش و واکنش در همه جا و همه موارد حکم فرماست و هیچ کس هر چقدر هم با قدرت و نفوذ نخواهد توانست از واکنش عمل ناشایست خیش در امان باشد چون برای هر کاری مكافات و مجازات تعیین شده است اش و زرتشت به مردم توصیه میکند بر علیه بدی و زشتی پیکاری دائم و پیگیر باید داشت و تا نابودی آن نباید از مبارزه دست کشید در بند چهار ازهات و شش شتودگات در این مورد چنین آمده است. ای مزدا: کسی که با تمام نیرو و وجودش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را برای خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. در مورد پیکار با بدی و کمک به فیروزی روشنایی، بر تاریکی و سپنتا مینو بر انگره مینو اشارات مکبری شده است که به ذکر برخی از آنها مبادرت خواهد شد. صفحه یازده در بند دوم از هات 33 یشنا میفرماید کسی که با اندیشه و گفتار و کردار و با بازوان خیش با بدکاران پیکار کند و نقشه آنها را اقین سازد و یا آنان را به راه راست رهبری کند چون این شخصی خاست پروردگار را انجام داده و به خداوند جان و خرد عشق می در کیش زرتشت و بنابه گاتاها تنها پرهیز از کارهای ناشایست و دوری از شر و فساد کافی نیست بلکه عملا باید از افراد طبع که در صدد ایجاد فساد و یا جنایتی هستند، جلوگیری به عمل آورده و حتی القوه سعی کند افراد منحرف و سیاهکار را راه راست هدایت نموده و زشتکاری آنها را اقین سازد. اشوزرتوشت معتقد بود کسی که سیاهکاران را کمک و یاری نماید، خود نیز از طرفداران و هواخواهان آنهاست، و کسی که به نیکوکاران کمک کند، از پارسایان و درستکاران به شمار خواهد آمد. چونانکه در بند شش از حاط چهل و شش اشت کسی که برای هواخواهان دروغ آرزوی فیروزی کند و بدانها یاری بخشد، از هواخواهان دروغ و کسی که درست کرداران را دوست داشته، و بدانها عرج نهد، در زمره پارسایان به حساب خواهد آمد. برای دوری جستن از بدی و دروغ و طبع در هات پنجاه و سه، یسنا، بنده شش، و زرتشت به پیروان خود چنین توصیه می فرماید. ای مردان و زنان، کوشش کنید، از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوسه انگیز است، پرهیز کنید. از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خیش را با دروغ یک بار بک و بدانید آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیشارگی دیگران به دست آید، جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد. و تباهکاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند، درستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد. موضوعی که در گاتاها بدان اهمیت بسیار داده شده است، انسانیت و مردمداری آدمیان میباشد. اشر زرتشت بیشتر به جنبه اخلاقی مردم توجه دارد او می‌خواهد همه‌ی افراد بشر برادروار کنار هم با صلح و صفا و مهر و محبت زندگی کرده و به یکدیگر مهر ورزند این خوشبختی را خوشبخت کردن دیگران می‌شناسد چنانکه در اوشت ودگات می‌فرماید صفحه دوازده موضوعی که در گاتاها بدان اهمیت بسیار داده شده است، انسانیت و مردمداری آدمیان می باشد. زرتشت بیشتر به جنبه اخلاقی مردم توجه دارد. او می خواهد همه افراد بشر، برادروار، کنار هم با صلح، و صفا و مهر و محبت زندگی کرده و به یکدیگر دیگر مهر ورزند. او، خوشبختی را خوشبخت کردن دیگران میشناسد. شناسد. چنان که در اشت ودگات می‌فرماید فرماید اشتا احمایی پهمایی اشتا کهمایی چیسته یعنی خوشبختی برای کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. اشوزرتوشت یاری کردن درماندگان و بیچارگان و دستگیری از ناتوانان و مستمندان را وظیفه وجدانی هر فردی می داند و پاداش افرادی که به درویشان کمک کند ملکوت آسمانی و نیروی اهورایی مقرر فرموده است اشوزر توشت توصیه میفرمایند برای رسیدن به خداوند یکتا و زیارت دیدار او تنها با پرورش فروزگان اهورایی که به نام امشاسپندان معروفند میسر است که در رأس همه اندیشه نیک و سالم و منش پاک یعنی وهومن قرار دارد وقتی انسان مغز خود را از هر گونه افکار ناشایست و پلید پاک کرد و اندیشه نیک و خیرخواهی را جایگزین آن ساخت هنگامی که بدون حب و بغز و بدون خودخواهی به مسائل توجه پیدا کرد و سود دیگران را بر منفعت خیش ترجیح داد، آن وقت است که فروزه پاکمنشی خداگونه در او به وجود آمده است و می تواند به مرحله دوم کمال که عشا یعنی راستی و پاکیست گام بنهد. در این مرحله باید راستی و درستی را همیشه جلوه دید خود قرار دهد. و از دروغ گفتن سخت پرهیز نماید اگر جان او نیز در خطر باشد نباید از راست گفتن به هراسد با پیشرفت در این مرحله به فروزگان گذشت و انصاف مروت و جوانمردی اعتدال و میان روی شهامت و مردانگی خون خواهد گرفت و به سومین گامه خیشتنداری و چیرگی بر نفس و خدمت به مردم که از ویژگی های خشت را یا شهریور است دست خواهد یافت. سخت‌ترین مرحله اینجاست که انسان بتواند بر امیال و حوث ها و آرزون و خواهش های خیش شهریاری کند و در اثر تمرین مداوم و جهاد با نفس از این مرحله نیز فیروز بیرون آید. از آن پس، به آخرین گامه سپنتا آرمئیتی یعنی عشق پاک و فروتنی و بردباری گام خواهد گذاشت. در این مرحله شاگرد مکتب انسانیت عشقی پاک به خدا و همه بندگان خدا پیدا خواهد کرد. وجود او از مهر و محبت نسبت به همه افراد بشر لبریز خواهد شد. و به مرحله کمال و رسایی و جابدانی اروتات و امرتات یعنی خورداد و امورداد خواهد رسید. در این مرحله وجودش از فروزگان خداگونه انباشته خواهد گردید و چون پرتوی از فروغ درخشان احورایی به همه برادران و خواهران نوعی نور محبت و خدمت و فداکاری خواهد تاباند. چون این شاگردی که مراحل کمال و انسانیت را طی کرده است همه ابنای بشر را از هر نژاد و ملیت و مذهب چون برادر دوست خواهد داشت و به همه محبت خواهد ورزید او به مرحله کمال انسانیت وارد گشته است او دیگر به وسیله پرورش فروزگان اهورایی خداگونه شده است اون برای رسیدن به خدا اول بار به درون خیش توجه پیدا کرده و سپس با بینش درون با اندیشه پاک و بیالایش با راستی و درستی و چیرگی بر نفس و محبت به همه توانسته است به آرمان خیش یعنی دیدار با خداوند درون نائل گردد. صفحه چهارده اشو زرتشت جهان هستی را میدان مبارزه و کشمکش دائم دو نیروی زدین زد یعنی سپنتا مینوم و انگره مینو میداند و میفرماید این دو گوهر همزاد و همراه در عین حال که با هم مخالف و در ستی زند لازم و ملزوم یکدیگر نیز میباشند وجود این دو گوهر با هم آفرینش و هستی را پدید میآورند مثلا نیروی مثبت و منفی در عین مخالف بودن با یکدیگر موجب به وجود آمدن برق می‌گردند نیروی جاذبه و دافعه موجب ثابت ماندن کرات آسمانی در جای خود می‌باشند نیک و بد زشت و زیبا بستگی به طرز اندیشه ما دارند آنچه به سود ماست نیک و آنچه به زیان ما باشد آن را بد و نازی با می شماریم بنابه فرموده ی آن چه در این جهان وجود دارد از آفرینش خداونده یکتا باشد و در ذات خود نیکوست و به منظور خاصی آفریده شدند مثلا تریاک ماده است هم شفابخش و مسکن و هم کشنده و آفرین. اگر مقدار کم آن در مورد دندان درد و یا برای تسکین درد دیگری به کار برده شود بسیار نافع و نیکوست. ولی اگر برای خودکشی و نابودی مورد استفاده قرار گیرد زهری است کشنده و مرگآور و ماده‌ای است بسیار مذر و زیان‌آور نیکوبر همان همانطور که قبلا گفته شد بستگی به طرز تفکر بشر دارد به عبارت دیگر نیکو بد زشت و زیبا از زمانی به وجود می‌آیند که بشر پا به عرصه وجود می‌گذارد و نیروی تشخیص و تمیز او به کار می‌افتد به طوری که در بند سوم از هات سی یسنا آمده است آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور پدیدار شدند یکی نیکی است و دیگری بدی در اندیشه و گفتار و کردار. چنانکه از مفاد بنده بالا روشن میگردد، دو گوهر سپنتا و انگره مینو دو گوهر همزادی هستند که در برابر هم قرار گرفتند و در عالم اندیشه به صورت نیک بد ظاهر میگردند. اصلاً اصلا مفهوم خود مینو اندیشه و منش میباشد. که یکی گوهر پاک یا اندیشه فضاینده و سازنده است و دیگری گوهر ناپاک یا اندیشه ویرانگر و تباه کننده انگرمینو که بعدها در زمان ساسانیان به صورت اخرمینو و نو و اهریمن تغییر شکل یافته است نمی خالق شر باشد و در برابر اهورا هستی بخش دانای بزرگ و سرچشمه نیکی ها قرار گیرد احریمن در نهاد بشر وجود دارد و بستگی به اندیشه ویرانگر شیطان صفاتان و ددمنشان دارد و به هیچ ور وجود خارجی ندارد به عبارت دیگر می توان سپنتا مینو و انگره مینو را به فرشت خویی و احریمن صفتی تعبیر کرد که هر دو در خوی و خصلت و اندیشه و نهاد انسان قرار دارد و از او جدا نیست بنا آخر بند سوم هاتسیه یسنا دانایان و فرزانگان راه نیک و درست را برمی‌گزینند ولی نابخردان چنین نخواهند کرد و بی خواهند رفت شخص نادان و کوردل گرفتار هوای نفس و کش خیالی خود شده و به راه خطا خواهد رفت و در نتیجه کارهای ناشایست و غیر انسانی از او سر خواهد زد و رفته رفته ددمنشی و اهریمن صفتی در او ظهور و بروز خواهد نمود و تجسمی خواهد بود از اهریمن انسان نما ولی شخص فرزانه و دانشمند راه نیک اختیار خواهد کرد و بر هواهای نفسانی خیش مهار خواهد زد و با کارهای انسانی و شایسته خود فرشته خواهد شد به صورت انسان. سخه شانزده در مورد سوشیانس و موعود زمان در گاتاها می گوید در هر دوره ای از زمان، که بیدینی و بی ایمانی، فسخ و فجور، دزدی و دروغ، فساد و جنایت، قتل و غارت بیداد و ستم، حقکشی و زورگویی عرصه را بر مردم تنگ کند، در چون این موقعی سوشیاند یا نجات دهنده و رهایی بخش ظهور خواهد کرد، تا مردم را از بدبختی و بیچارگی نجات بخشد، سوشیانت ها جهان را تازه خواهند کرد و تحولاتی پدید خواهند آورد و داد و انصاف و راستی و درستی و نیکی و خوبی و آشتی و آرامش در جهان مستقر خواهند ساخت. از این گونه سوشیانت ها یا سود رساننده ها و رستگاری ها بارها آمدند و باز هم خواهند آمد. سوشیاند ها برای پیشبرد جهان به سوی تکامل و رسایی و تازه گردانیدن آن از لحاظ تحول و دگرگونی به سود جامعه رنج دیده و مصیبت کشیده و پیشرفت مردم به سوی آبادانی و کمال انسانیت هر چند وقت یک بار ظهور کرده و میکنند. مخصوصاً در مواقع بحرانی که خدمات آنها بسیار چشمگیر خواهد بود. در گاتاها دروج یا دروغ را مادر تمام گناهان و بدبختی ها دانسته و درگوند یا دروند یعنی هواخاه دروغ و دروغگو را دشمن دین راستین مزده خوانده و از آن به بدی یاد می کند. دیویسناها یا هواخاهان خدایان پنداری و دروغین، در برابر مزدا یا پرستندگان مزدا خداوند یکتا بارها قد علم کرده و صد راه پیشرفت زرتشت در ارشاد مردم به سوی یکتا پرستی شدند. رؤسا و کاهنان دیویسنا به نام کویان و کرپان و اوسیخش مزاحمت‌های بسیاری برای پیغمبر به وجود آورده و در بدآموزی و منحرف ساختن مردم کوشش می‌نمایند گاه گاهی آشوزرتشت از کندی پیشرفت کارفیش به سطوح می‌آید و زبان به شکوه میگشاید ولی هیچ گاه در ایمان او نسبت به مزدا خلالی وارد نمی‌گردد گاتاها نشان می‌دهد چگونه وخشور بزرگ با صبر و شکیبایی و پس از تلاش و کوشش بسیار و مواجه شدن با ناکامی ها و زخم زبان سرانجام در دهمین سال معموریت خیش موفق می شود پسرموی خیش نیدیو ماه و چند تن از خیشان نزدیک خود را به دین بهی درآورد و دو سال بعد چون پیغمبر در غرب ایران موفقیتی به دست نمی آورد به سوی شرق و بلخ روی آورده و گشتاسب شاهنشاه زورمند کیانی را پس از بحث و مناظره های طولانی با دانشمندان دربار به کیش خود درمی آورد. و با اون جاماسب و فرشوشتر نیز که از وزرا و افراد بسیار سرشناس و فرزانه کشورند دین بهی را قبول و با کمک آنها کیش زرتشتی مزده در جهان رو به گسترش میرود در گاتاها از گشتاسب فرشوشتر و جاماسب و میدیوماه به عنوان یاران بسیار باوفا و بهترین پشتیبانان زرتشت نام برده شدهاند وخشور بزرگ نامبردگان را از اعضای برجسته انجمن مقان یا انجمن برادری و آزادگی میشمارد اعضای این انجمن به نام مغ یا مگ یعنی بزرگی و بزرگواری و فرزانگی معروف بودند و افرادی از هر لحاظ بزرگوار، آزاده و فرزانه به شمار می آمدند. ریاست این انجمن با خود اشوزر بود. نکته مورد توجه دیگر در گاتاها آن است که اشوزر بیشتر روی سخنش با دانایان و بخردان است و تاکید دارد که تنها این گروه پیام او را بشنود و به دیگران برسانند. زیرا وخشور پاک نیک می که اشخاص نادان و کوردل قادر به درک جرفای پیام راستین او نبوده و نخواهند توانست برابر آن رفتار نمایند و بیشتر تابع احساسات خود، خواهند گرفت گرچه پیغمبر در رساندن پیام خود به طبقه روشن فکر و دانا بیشتر توجه دارد ولی مکرر توصیه می نماید که خردمندان و فرزانگان باید جاهلان و نابخردان را دانش بیاموزد و در شناخت راه از چاه آنان را یاری نمایند چونان که در بند هفته از حات سی و یک دانا باید با دانش خیش نادان را آگاه سازد، نشاید که نابخرد گمراه ماند. اش رو پس از یک عمر تلاش و کوچش و انجام معموریت ارشاد و رهبری مردم به سوی راستی و یک پرستی، سرانجام، بنابه بند اول و هیشتوهای اشتگات همه خاستهایش به بهترین نحوی برآورده شده و از یک زندگانی نسبتاً طولانی و سراپا پارسایی و خوش و خرم برخوردار گردید و حتی کسانی که با او دشمنی داشتند و عذیت و آزارش می کردند، تغییر رویه داده و حاضر شدند سخنان حکمتبار بار، و اندیش انگیزش را به گوش هوش بشنوند و به او احترام گذارند و در گفتار و کردار از آین بهی پیروی چون چنین بود زندگانی سرابها کوشه و تلاش وخشور بزرگ ایران و پیام آسمانی او امید است علاقمندان به گفتار و پیام اشا زرتشت به فارسی روانی که از تمام بخش‌های گاتاها آورده شده است بهره نیک گیرند و در زندگانی بکار برند در پایان لازم می‌داند نظرات روانشاد دکتر ایرج تاراپور والا استاد عالیقدر خیش و همچنین پروفسور میلز انگلیسی را در مورد سرودهای آسمانی زرتشت برای اطلاع خانندگان محترم در زیر یاد نماید دکتر تاراپور والا در مقدمه بر گاتاهای خود می نویسد تنها کسانی که براز درون خود پی برده و با کوشش خستگی ناپذیر برای پاک کردن مغز خیش از هر گونه پلیدی و اندیشه‌های ناشایست طریق روحانیت را طی کردهاند می‌توانند. به درک گفتار و مفاهیم درونی سخنان پیامبران بزرگ نائل آیند. موعون ادیان و سراینده گاتاها از روی خرد و دانش بسیط و پرژرف سخنانی پر از حکمت و فلسفه ایراد کردند. گفتار این نوابق جهان را نمی توان جاهلان رها کردن تیری در تاریکی دانست. و یا آن را با حرفهای نامفهوم شیرخاری تشبیه کرد، بلکه باید سخنان مزبور را تراوشات فکری شخصیتهای نامدار و دانشمندان سترگی دانست که به درجه کمال رسیده و از سوی خداوند یکتا به آنها الهام شده است، پیامبران بزرگ حقایق آموزش خود را به شاگردان و پیروان اولیه خود تعلیم دادند. ولی نسل بعد نتوانستند آنطور که باید و شاید گفتار پیانبران خود را درک کنند، بنابراین رفته رفته، موهوم و خرافات که زاییده جهل و نادانی است، آموزش های حکیمانه آن رادمردان بزرگ، و نجات دهندگان بشر را مخشوش و پریشان ساخت. تاریخ کلیه مذاهب نشان می‌دهد که بنیانگذار یک مذهب همیشه گفتارش از روی دانش و حکمت و بینش و بصیرت بوده و الهامی از جانب خداوند یکتاست و خود بنیانگذار دارای شخصیت ممتاز و مافوق بشر عادی بوده و یا یک عبرمرد می باشد موریدان و پیروان اولیه نیست که همزمان با پیانبر بوده و یا چند سالی بعد از او آمده اند از لحاظ فهم و ادراک و بصیرت به موضوعهای مذهبی و بحثهای اخلاقی نسبت به اشخاص متوسط و عادی بسیار برتری داشتند ولی متاسفانه با گذشت زمان مفاهیم و خرافات و روش‌های ناپسند وارد آین پاک و بیالایش بنیانگذار آن گردید و به مرور زمان جای تعالیم اصولی پیامبر را گرفت. از بین اوستاشناسان غرب، استاد پروفسور میلز انگلیسی نظراتی بسیار زیبا و خردمندانه درباره گاتاها و متون آن دارد که در مقدمه گاتاهای خود آورده و در زیر قسمتی از آن را نقل می‌نماید. ای که در سرودهای آسمانی گاتاها بیشتر از هر چیز دیگر توجه را به خود جلب می‌کند، آن است که تمام قدرت در دست پروردگار توانایی است به نام اهورا مزدا. نامبرده دارای شش فروزه یا پرتای است به نام امشاس پندان. یا جاویدان های مقدس آتش مظهر پاکی و قدرت خداوند و سروش مظهر فرمان برداری از اوامر الهی نیز مانند امشاز پندان، تجسم یافته است و در گاتاها مورد احترام و اهمیت می باشند از دو نیرو یا دو مینو به نام سپنتا و انگره صحبت شده است که لازم و مرزوم یک دیگر بوده و با اتحاد یک دیگر خیر و شر را در جهان هستی به وجود آورده و در نتیجه موجب مکافات و مجازات شدند حقیقت آن است که بهشت و دوزخ به صورتی که مردمان روشن فکر امروزی با آن آشنایی دارند و جنبه معنویت دارد برای اولین بار در گاتا ها ذکر شده است بشر سالیان دراز مانند طفل از ترس و وحشت دوزخ و رنج و عذابهای گوناگون پس از مرگ بر خود میلرزید و از لذایز و نعماتی که در بهشت برخوردار خواهد شد شادی شادیها مود. در صورتی که زرتشت در روزگاران بسیار کهن این حقیقت را آشکار ساخت که پاداش بهشت و مجازات دوزخ امری درونی و معنوی است بهشت و دوزخ همان راحتی اندیشه و آسایش وجدان و ناراحتی فکر و عذاب وجدان می باشد. آموزش این نکته در تغییر عادات و روش فکری ایرانیان باستان بسیار مؤثر بود. پروفسور میلز اضافه می کند در گاتاها برای راهنمایی نیکوکاران پیروی از دستور مانتره کلام مقدس و پرورش امشاز پندان پرتوهای خداوندی تأکید شده است. در صورتی که بدندیشان و سیاه را در گاتاها می از وسوسه های اکومن یا اهریمن گمراه گردیده و به زشکاری و ستمگری خود مشغولند، به طوری که روان آفرینش از ستمگری های آنها به سطوح آمده، و به درگاه اهورا پناه میبرد کوشش مردمان درست کار و با تقوا برای تأمین زندگی از راه مشروع با مخالفت دیف پرستان که سعی دارند، علارغم مزداپرستان مزدا بر کشور ایران حکم فرمایی داشته باشند، مواجه میگردد. سرانجام با درخواست روان آفرینش، اشوزر توشت برای ارشاد و نجات مردم، تاین و نوید داده می شود. از آن به بعد به یک سلسله نیایش و ستایش و درخواست و معذب و اندرز برمیخوریم. در خلال گاتاها به جنگهای خونین و حمله و حجوم دشمنان یک تا ولی از لحن کلام زرتشت و سپاسگزاری او به درگاه اهورا، درک می‌کنیم که پیامبر موفقیت شایانی به دست آورده و در امر رسالت فیروز گردیده است. اما راجع به اینکه زرتشت که بود و در کجا زندگی می‌کرد و چه موقع از مادر زاییده شد، پروفسور میلز چنین می‌نویسد: زرتشت یک شخصیت تاریخی است و در وجود او هیچ گونه تردیدی نمی‌توان داشت. در مورد اینکه سرودهای مقدس گاتاها به زرتشت و نزدیکانش نسبت داده شده است، برای من شک و ابهامی وجود ندارد. گرچه امکان دارد قسمتهایی از گاتاها بعدها وارد سرودهای آسمانی زرتشت شده باشد، محازا به طور کلی مزامین گاتاها یک پارچه بوده و حتی عبارات و جملاتی که بعدن، در این کتاب آسمانی گنجانده شده با مضمون و مفاد اصلی گاتاها شباهت کامل دارد و از لحاظ ظاهر کلام نیز با آن مغایرتی ندارد. صفحه 22 علتی ندارد که نام زرتشت به عنوان محبوب‌ترین و عزیزترین نام برای بشر باقی مانده باشد. مگر اینکه صاحب این نام دارای چنان شخصیت برجسته‌ای باشد که شاهنشاه با قدرتی چون گشتاسب را با تمام افراد قلمرو فیش مجذوب بیانات شیوا و اندرزهای حکیمانه خود کرده باشد در گاتاها مواردی هست که به طور وضوح سراینده این سرودها را نشان میدهد. مثلا در بند ششم از هات پنجاه یسنا سپنتومدگات آمده است که ای اهورا مزدا بگذار کسی که صدای خود را با سراییدن کلام مقدس بلند کرده است و اون زرتشت دوست وفادار توست از روی راستی دستورهای الهی را به مردم جهان ابلاغ و آنها را ارشاد نماید. و باز در این مورد ادامه میدهد، سراسر گاتاها از لحاظ قافیه و اوزان شعری و استعارات و اصطلاحات و عبارات یک نواخت و یک پارچه بوده و تردیدی نیست که اثر اندیشه و تراوشات فکری یک نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم می توانست باشد. حال اگر فرض کنین زرتشت سراینده گاتاها نیست، پس شخص بینام دیگری که اندیشه روح و قلب و زمیرش در راه اشاعه و انتشار مذهب یک تا پرستی، صرف گشته است، باید این مهم را انجام داده باشد. اهمیت زرتوش را می در اقدامات شخصی پیامبر دانست. گرچه نام بیشتاسب و فرشوشتر، و جماسپ هم در گاته ذکر شده است ولی نمیتوان سخنان کتاب آسمانی را از آنها دانست. زیرا سراینده سرودهای آسمانی از لحاظ شخصیت و تفکر به مراتب از آنها برتر بود. چیزی که روشن است اینکه در سراسر آیات این کتاب آسمانی روح یک نفر تنظیم کننده و در روحیه شاگردانش احساسات یک استاد تجلی و تظاهر می کند راجع به خصوصیات ویژه این آموزگار بشر همانا تعالیم ارزنده است که در کتاب گاتاها گنجانده شده است در هیچ اصر و زمان و در هیچ جای جهان تا آنجا که مدارک و شواهد در دست نشان می‌دهد، شخصی وجود نداشته است که چنین اندیش مندانه و پرمغز سخن بگوید. گرچه امروز برخی از همان افکار بلند جنبه فلسفه های مذهبی و اخلاقی پیدا کرده است، ولی تا آن زمان هنوز چنین اندیشه های شگرف و سخنان گهربار را کسی بر زبان نیاورده بود. طرز تفکر و بیان شیوای پیمبر کاملا ویژگی داشت. در هر یک از واجه ها و عبارات و نوشتههایش اندیشهای ژرف و پرمغز نهفته است مهارت و استادی او در بیان حقایق عرفانی بینظیر است اندیشه بلند و شگرف او در تجسم بخشیدن به فرو نوار شماره دو کتاب گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت به غلم موبد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 بی‌نظیر است اندیشه بلند و شگرف او در تجسم بخشیدن به فروزگان ویژه پروردگار به صورت امشاسپندان که پرورش آنها موجب تفکیه روح و رستگاری بشر می‌گردد چنان استادانه بیان شده است که دانشمندان عالیقدر امروزی از درک اینکه عشا و بوهمن به صورت فرشتگان و امشاس پندان تجسم یافته و یا اینکه اندیشه و اراده خیرخواهانه پروردگار است که در انسان تجلی پیدا کرده است آجز می باشد. ارزش اندیشه و گفتار پیامبر ایران باستان را باید از نقط نظر زمان و مکان سنجید بدون توجه به این دو عامل مهم داوری صحیح در مورد زرتشت امکان ندارد هنگامی که خواننده گاتاها به زمان بسیار کهن که این سرودهای مقدس سراییده شده و به تمدن نسبتاً ابتدایی اصر می از بیان حکیمانه پیغمبر ایران ناگزیر زبان به تحسین و تمجید می گشاید راجب احساسات شخصی زرتشت می توان گفت او نسبت به مزدا ایمانی خلال نپذیر و استوار داشت و به او عشق می واژه واجه زرز دایتی که دارای مفهوم خلوسنیت و صفای باطن است در مورد پیانبر ایران مصداق دارد. از مفاد گاتاها می‌دانیم که که زرتشت شخص با شهامتی بوده ولی از جنگ و خونریزی پرهیز داشته است. در مقابل سختی ها و ناهمواری ها خودداری زیاد مینمود ولی برای فیروز شدن بردوشواری ها ایستادگی و سرسختی نشان در در ها همه چیز جدی و واقعی است. روح آفرینش به طور شاعرانه در حال استقاسه است و اهورا و امشاسپندان را در حال صحبت کردن و گوش دادن و دیدن می آبیم. همه چیز در گاتاها عملی است. گرهما، بندوه، کویان و کرپان و اوسیخش دشمنان زرتشت، گولهای افثانهی نیستند. هیچ مارو و مردم شهر و روستا را تهدید نمی کند و هیچ پهلوان افثانهی از مردم حمایت نمی کند. زرتشت فرشوشتر، جاماسپ، میدیوماه، اسپنتمان، هووگوو، هیچادمپ از شخصیت واقعی هستند که به طور ساده و بی تکلف از آنها نام برده شده است. به جز الهام و وحی آسمانی که در اثر اندیشه و تفکر امیغ به زرتشت دست می دهد، در گاتاها از معجزات و کرامات خبری نیست، فعالیت انسان در اطراف تلاش و کوشش و غریزه طبیعی برای زیستن و رنج بردن دور میزند. یک نفر عوستاشناس چنانچه اول گاتاها را خوب مطالعه نماید و بعدن به یشتها و وندیداد بپردازد در واقع میتوان گفت چون این شخصی از عالم حقیقت به سرزمین افسانهای قدم خواهد گذاشت. در گاتاها پیامبری را می که در حال تلاش و کوشش و تحمل سختی و مشقت است، در صورتی که در یشتها همین شخص را به صورت نیمه خدای افثانهی مشاهده می کنید. هرچند افکار اصولی افسانه‌های های یشتها و وندیداد کهن بوده و برخی از آنها مسلما از گاتاها و وید هندوها نیز کوهنتر می باشد. ولی به طور کلی زمان تدوین یشتها و وندیداد بسیار متعخرتر از گاتاها میباشد من میلز تصور میکنم گاتاها کمتر از سایر قسمتهای اوستا مورد دستبرد قرار گرفته است و چنانچه عبارات و جملاتی از خارج در آنها گنجانده شده باشد یا از روزگاران كهن بوده و شباهت بسیار زیادی با اصل متن داشته است، آن قسمت از گاتاها را که بعداً در متن اصلی گنجانده به احتمال قوی کار شاگردان اولیه زرتشت میباشد می باشد که همان روحیه و ایمان و اخلاص استاد را در نوشته های خود حفظ کردند. پروفسور میلز در پایان مقدمه خیش بر گاتاها می نویسد، <تصفيق> گاهی برخی از دوستانم میپرسند چه چیز باعث شد که به آیین زرتشت و مطالعه گاتاها روی آوردم؟ در پاسخ باید بگویم من در سنین جوانی اشتیاق فراوانی به مطالعه و تحقیق در رشته و تخصص در این علم داشتم. در سال 1872 میلادی که به اروپا آمدم این رشته را دنبال کردم بعد عاشق و شیفته فلسفه کانت شدم و مدتها نیز روی این فلسفه کار کردم ولی سرانجام برای پیدا کردن مبدأ و اصل عرفان به زبان زند و اوستا روی آوردم و فهمیدم که تمام این رشته‌ها مانند های زنجیر به هم بستگی و ارتباط دارند و انسان را به سرچشمه حقیقت و خوشبختی راهنمایی پیش پیشگفتار خود را با سخنان نقض استاد پروفسور میلز اوستاشناس انگلیسی و دارمستتر فرانسوی پایان می‌بخشم. هرگاه برای تاریخ افکار بشر ارزشی قائل گردیم باید گفت اوستا مقام مهمی را در این تاریخ تحصیل خواهد کرد اوستا نه فقط کهنترین اثر جاودانی از افکار آریایی را به ما ارائه می میدهد بلکه از نظر تأثیر عمیق و وسیعی که در ادیان یهودی و مسیحی داشته است مقام موثری در توسعه مذهب و سرنوشت بشر کسب کرده است میل کم درآمدترین و درماندهترین فرد زرتشتی خود را سربازی میداند که باید برای فیروزی راستی بر دروغ و نیکی بر بدی مبارزه کند هیچ مذهب دیگری نمی توانست در یک فرد احساسی به وجود آورد که اینقدر نسبت به زندگی خوشبین باشد و برای زندگی ارزش قائل گردد و آن را دوست داشته باشد کسی که اطمینان دارد در پرتو سعی و کوشش بر مشکلات زندگی چیره خواهد گردید، مسلمن شکست در اندیشه اون راه نخواهد یافت. همین امر باعث شده است که زرتشتیان پس از گذشت توفانهای سهمگین و بلایای خانمانسوز هنوز پای مانده، در هندوستان از همه پیشرفتهتر و در جهان مترقی پیش کامتر از همه به سوی فروغ و روشنایی، با کاروان تمدن همگام به جلو میتازد. درمسته امید امید است خوانندگان علاقمند به ویژه زرتشتیان از گفتارهای نغز و پر از حکمت اش و زرتشت درس زندگی و انسانیت بیاموزند و آموزشهایش را در زندگی به کار برند تا هم در جهان کام روا و هم در عقبا رستگار شوند در پایان لازم می از رادمرد خیراندیش و وارستهی که حزینه چاپ این کتاب را تقبل فرموده و حاضر به افشای نام خود نمی باشد سپاسگزاری کرده و دیرزیوی و بهروزی و شادزیوی و فیروزی او و خانواده ارجمندشان را از یک تا اهورای توانا خاستار گردم روز سروش و امرداد ماه 1350 یزدگردی برابر با سی و یک پنج 1360 خرشیدی موبد فیروز آذرگشسب. صفحه 28. و هشت سراغاز احانودگات هات 28 یسنا سراسر اندیشه و گفتار و کردار اشوزرتشت الهامی است از سوی خداوند یکتا که انسان را به سوی رسایی و خوشبختی راهنمایی می‌کند. پاکان جاودان یا پرتوهای اهورایی و سرودهای مقدس گاتاها را فراپذیرید و بدانها ایمان داشته باشید. ای گاتاهای مقدس با کمال احترام به شما درود می‌فرستم. بند یک پیش از هر چیز، ای دانای بزرگ نیکی افضای مینوی، با دستهای برافراشته، تو را نماز برده و خوشبختی کامل را خواستارم. پروردگارا بشود که در پرتو راستی و درستی و برخورداری از خرد و دانش و زمیر پاک، روان آفرینش را خوشنود سازم. بند دو ای هستی بخش دانای بزرگ، هر آینه با اندیشهای پاک و دلی روشن به تو نزدیک شده و به دیدارت نائل خواهم شد. پروردگارا پاداشی که تنها در پرتوه راستی به دست می آید و مؤمنین را خوشبخت می سازد، در هر دو جهان مادی و معنوی به ما ارزانی دار. بند سه ای هستی بخش دانا، ای عشا و ای وهومن یعنی مظاهر راستی و پاکی و اندیشه نیک و مهرورزی به مردم. سرودهایی میسرایم که کسی پیش از این نسروده است. آرزو دارم به وسیله عشا، وهومن و خشترای فنانا پذیر، یعنی مظهر قدرت و اراده خداوند، حس ایمان و فداکاری در قلب من افزایش یابد. پروردگارا درخواست ما را بپذیر و به سوی من روی آور و به ما خوشبختی ارزانی دار. بند چهار در پرتوه اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا،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 مظهر اندیشه نیک آیا با دانش الهی و خرد واقعی تو را خواهم شناخت آیا با فرمانبرداری از ندای وجدان و فرمان اهورایی به سوی هستی بخش دانا و توانا راه خواهم یافت بشود که در پرتو کلام مقدس و با نیروی بیان گمراهان را به برترین راه که همانا راه راستی و یکتاپرستی است رهبری کنم. بند شش پروردگارا چونان که در گفتار آسمانی نوید داده شده است در پرتوه اندیشه پاک و راستی به سوی ما آی و ما را از بخشایش دیرزیوی برخوردار ساز. ای هستی بخش دانا، به زرتوشت و همه دوستان اون نیروی معنوی و شادمانی بخش تا برکینه دشمنان خود چیره گردند. بنده هفت ای اشا: آن بخشایشی که سمره اندیشه پاک است، به ما ارزانی دار. ای آرمیتی، آرزوهای گشتاز و پیروان ما را برآورده ساز. ای خداوند خرد، به ما بندگان فداکار نیرو بخش تا فرمان مقدس تو را به جهانیان بفهمانیم. بنده هشت ای هستی بخش، ای برتر از همه و با بهترین راستی هم اراده. از تو قلباً آرزو دارم که به فرشوشتر نامدار و یارانم و همچنین به کسانی که از بخشش جاودانی و نیکندیشی برخوردارند، بهشت ارزانی داری بند نه ای اهورا مزدا همواره کوشش می کنم سرودهای ستایش خود را سمیمانه نیازد کنم و هیچگاه اشا و وهومن مظاهر پاکی و نیکمنشی را به خشم نیاورم زیرا اشا وهومن و خشت را توانا را سزاوار ستایش می دانم پانویز عشا و و خشترا پرتوهای سگانه اهورا می باشند که عبارتند از راستیها و نیکندیشی و محبت به هم نوع و خدمت به مردم با شهریاری بر نفس که سزاوار ستایش می باشند. زیرا اینها و جلوههایی هستند از خود اهورا ادامه متن صفحه سی بند ده ای هستی بخش دانا هر آینه آرزوی کسانی را که در پرتو راستی و اندیشه پاک از نظر تو روشنبین و درست کردار شناخته شده اند براورد ساز چه به راستی میدانم دانم ستایش های خالصانه و بیریای بندگان تو که دارای هدفی عالی و نیکند بلا اثر و بینتیجه نخواهد ماند؟ بند یازده بشود که با این نیایش‌ها همیشه از نعمت راستی و اندیشه پاک برخوردار گردم،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 روان آفرینش به درگاه تو گلمند است برای چه مرا بیافریدی چه کسی مرا کال هستی بخشید؟ خشم و ستیز و چپاول و قارت و گستاخی و تجاوز همه جا را فرا گرفته. مرا جز تو پشت و پناهی نیست. بنابراین نجات بخشی که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد به من ده. بند دو آنگاه آفریننده جهان یعنی اهورامزدا از اشا پرسید چه کسی رهبر و نجات دهنده مردم جهان خواهد بود تا ما بتوانیم پشتیبان و یاورش باشیم و به او نیروی آباد کردن جهان و گسترش راستی بخشیم ای اشا آیا چه کسی را مایلی به عنوان سردار و رهبر مردم جهان برگزینی تا بتواند سپاه بدان و گمراهان را در هم شکند و خشم و نفرت را دور سازد؟ پانویز اشا مظهر راستی و پاکی، تقوا و پارسایی، گذشت و فداکاری، شهامت و مردانگی، داد و انصاف، نظم طبیعت را سامان دادن ادامه متن بند سه عشاب به مزدا چون این پاسخ داد آن سردار و رهبری که برای جهانیان برگزیده می شود بیدادگر و ستم پیشه نیست بلکه شخصی بیآزار و مهربان است از بین کسانی که در این جهان خاکی زندگی می گرچه کسی را نمی شناسم که بتواند نیکوکاران را در مقابل طبحکاران حفظ کند، ولی قطعا او باید نیرومندترین فرد در میان مردم باشد تا به درخواست او به یاریش شتابیم. بند چهار بیگمان اهورا مزدا بهتر از همه آگاه است، که در گذشته چه کارهایی به وسیله بود پرستان و هواداران آنها سر زده و در آینده چه کارهایی به وسیله آنها انجام خواهد شد. چون داوری این کار تنها با اعورا مزداست. بنابراین آنچه خواست اونست ما بدان خوشنودیم. بند پنجم. ایدون من و روان آفرینش هر دو با احترام و دستهای برف راشته اهورا را ستایش کرده و از اون خواستاریم که هرگز به نیکوکاران و پارسایان و رهبر آنها گزندی نرسد و از حمله دشمنان و بدکاران در امان باشند. بند شش آنگاه اهورامزدای دانا که با دانش خیش نیروی حیات میبخشد چون این گفت آیا یک نفر سرور دنیوی شایسته و یا یک رهبر و نجات دهنده روحانی را که سرشار از پاکی و پرهیز کاری باشد نمی‌شناسی آیا چنین نیست که آفریدگار تو را به عنوان پاسبان و نگهبان آفرینش برگزید و مأموریت جهان را به تو بخشید بند هفت اهورا به سخنان خود چنین ادامه می دهد این سرود مقدس خوشبختی افزای یعنی اهونور از هستی بخش مطلقی است که ارادش با اشا یک است و پروردگار پاک آن را برای پیشرفت جهان و سعادت مردمان درست کردار نازل فرموده است پس از کمی مکس اهورا مزدا باز به سخنان خود ادامه داده می‌فرماید: فرماید، ای کیست آن نجات دهندهی که تو در نظر داری و می‌تواند مردمان را یاری کند و آنها را از گمراهی نجات بخشد؟ بند هشت اهورا مزدا یگان کسی که به دستورات الهی گوش فراداد و من او را خوب می شناسم، همانا زرتشت اسپنتمان است تنها اوست که خواستار آموزش آیین راستی و سرودهای ستایش مزداست بنابراین به او شیوایی بیان خواهیم بخشید بند نه آنگاه روان آفرینش با بانگ بلند گوید آیا من باید بدون چون و چرا پشتیبانی شخص ناتوانی را قبول کرده و به سخنان او گوش دهم. به راستی مرا آرزوی شهریار نیرومند و توانایی بود. آیا چه وقت؟ چون این شخصی برای یاریم به پا خواهد خواست و با بازوان نیرومند خود مرا حمایت خواهد کرد. بند ده ای اهورا مزدا و ای اشاک به اینها زرتشت و پیروانش نیروی معنوی و توانایی بخشید ای وهمن، تو نیز به زرتشت آن را یعنی نیروی اندیشه و هوش و خرد سرشار ارزانی دار تا در پرتو آن به جهانیان آرامش و آسایش بخشد ای دانای بزرگ ما همه او را برگزیده ترین آفرینش و شایسته ترین فرزنده تو دانسته و بر رهبری خیش میپذیریم. بند یازده روان آفرینش به سخنان خود ادامه میدهد. اشااء، ووهومن و, و خشت چه وقت به ما روی خواهند آورد. کی ای مزدا آینه آین تو را انجمن بزرگ مغان، خواهند پذیرفت. ای هستی بخش، اینک که برای ما یار و مددکار رسیده است، ما هم آماده خدمتگذاری هستیم. صفحه سی و پنج. توضیح اشا، وهمن و خشترا به ترتیب، مظاهر راستی و پاکی، اندیشه پاک و عقل و خرد و نیروی خدمت به خلق، کمک به پیشرفت و آبادانی و شهریاری بر هوای نفس است روان آفرینش میگوید پروردگارا مرا از فروزگان ویژه نامبرده برخوردار ساز ضمنا منظور از انجمن بزرگ مغان انجمنی که از زرتشت و یاران وفادار او تشکیل شده است و یا به عبارت دیگر هسته اولیه است که در گسترش آین نوین یعنی کیش زرتشت کمک شایانی نمود. باید در نظر داشت که این هات به صورت نمایشی برگزار شده است که نقش مهم آن را روان آفرینش یا نماینده مردم جهان بازی می کند و عشا و وحومن، امشاز و خود اهورامزده، برای نجات بشر از این همه ظلم و ستم، پس از یک رشته پرسش و پاسخ، اش و را شایسته ترین فرد برای این مأموریت دانسته و او را به عنوان رهبر برای ارشاد مردم برمی گذینند. صفحه سی و شش سی. بخش بنیادی کیش زرتشت.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 نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهرمند گردید. پانویز منظور از دو پدیده بزرگ سپنتا مینو و انگره مینو یا اندیشه سازنده و اندیشه ویرانگر و دو نیروی متزاد نیک و بد و منفی می باشد. ادامه متنو بند دو ای مردم، بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن و بینی آنها را بررسی کنید. هر مرد و زن راه نیکوبد را شخصا برگزینید، پیش از فرارسیدن روز واپسین همه بپاخی در گسترش آین راستی بکوشید. بند سه آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم تصور پدیدار شدند، یکی نیکیست و دیگری بدی در اندیشه و گفتار و کردار. مرد خردمند از میان این دو راستی را برخواهد گزید، ولی شخص کجندیش و نابخرد چون این نخواهد کرد و بیراه خواهد رفت. بند چهار هنگامی که آن دو گوهر به هم رسیدند، زندگی و نازندگی پدید آوردند. هواخواهان دروغ و تبهکاران به بدترین وضع روانی دچار و طرفداران راستی و نیکوکاران از بهترین منش یا راحتی خیال برخوردار خواهند گردید و این امر تا پایان هستی ادامه خواهد داشت. پانویست منظور از نازندگی مرگ نیست، بلکه یک نوع زندگی پر از تزویر و ریا و دروغ و فساد و اخلاق زشت و ناپسند می باشد. یک زندگانی پر از ننگ و بدنامی و دقدقه و تشویش که نمی توان آن را زندگی واقعی خواند، بلکه بیشتر شباهت به مرگ دارد، نه زندگی. پس، نازندگی به معنی زندگانی است که به حال اجتماع مفید و خوب نباشد. ادامه متن صفحه بند 5 از این دو گوهر همزاد، هواخواه دروغ زشکاری را برگزید، ولی سپند مینو، آنکه دارای گوهری پاک بوده و خود را با فروغ فنانا پذیر دانش آراسته است، راستی را برگزید. همچنین کسی که با ایمان کامل برای خوشنودی خداوند جان و خرد کار نیک انجام دهد راستی را اختیار خواهد کرد بند شش هواخواهان دیو یا بود پرستان چون در شک و تردید بودند فریب خوردند و از آن مینو راه راست را اختیار نکردند بلکه از پی بدترین منش یا اهریمن و خشم که انگیزه بدکاری است، روانه شدند تا بدین وسیله زندگی مردم را تباه سازند. بند هفت کسی که از نیروی معنوی و منش نیک و راستی و پاکی برخوردار است، صفحه 37 بند هواخواهان دیو یا بت چون در شک و تردید بودند، فریب خوردند و از آن دومینو راه راست را اختیار نکردند، بلکه از پی بدترین منش یا اهریمن و خشم که انگیزه بدکاریست روانه شدند تا بدین وسیله زندگی مردم را تباه سازند. بند هفت کسی که از نیروی معنوی، و منش نیک و راستی و پاکی برخوردار باشد و آرم ایتی با عشق و ایمان به کالبد او پایداری و استواری بخشد بیگمان چون این شخصی در آزمایش سخت زندگی فیروز گردیده و در زمره بندگان نیک تو ای پروردگار محسوب خواهد شد. بند هشت نگامی که به ذهنکاران به کیفر گناهان خود رسند آنگاه ای خداوند جان و خرد در پرتو اندیشه پاک قدرت تو را درک کرده و این حقیقت را خواهند آموخت که چگونه باید در برانداختن دروغ و کجی و کمک به فیروزی راستی و پاکی کوشش کرد بند 9 پروردگارا، بشود که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادی پیش میبرند، از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خرد و ای هستی بخش بزرگ، بشود که در پرتو راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دست خوش بدگمانی و دودلی هستیم، اندیشه و قلب ما یک پارچه به تو توجه پیدا کند بند ده زمانی که به جهان دروغ شکست و تباهی فرارسد آرزوی قلبی کسانی که به خوشنامی و نیکی معروفند برآورده شده و از نعمت سرای خوش نیکمنشی و راستی و بارگاه پرفروغ مزدا یعنی بهشت برخوردار خواهند گردید بند یازده ای مردم هرگاه فلسفه شادی و رنج را که خداوند خرد مقرر فرموده است بیاموزید و دریابید یابید که دروخویان و تبهکاران به کیفر دیرپا دوچار و درست کرداران و پاکان از سود بیپایان خوشبختی بهره‌بر خواهند گردید آنگاه در پرتو این اصل به خرسندی حقیقی و رستگاری نائل خواهید شد. صفحه چهل هات سی یک یسنا بند یک ای جویندگان دانش، اکنون آموزش ها و پیامی را که تا به حال شنیده نشده است، برای شما آشکار خواهم ساخت. این پیام برای کسانی که از روی تعالیم نادرست و وسوسه‌های شیطانی جهان نیکی را تباه سازند ناگوار می‌باشد ولی برای دلدادگان مزدا خوشایند و شادی بخش است. پانویس دلدادگان مزدا کسانی هستند که به خداوند اخلاص می‌ورزند و ایمانی صادقانه دارند. ادامه متن بند دو چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکارا دیده و برگزینید، بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم، بند س. پروردگارا در پرتو فروغ مینوی به ما چه خواهی بخشید آیا آن سعادتی که در پرتو راستی و پاکی به دست می آید و به همه وعده شده کدام است در مورد دانایان چه فرمانی داده شده است ای خداوند خرد، مرا از تمام این حقایق آگاه ساز و با گفتار الهام بخش خود مرا روشن نما تا همه مردم را به آین راستی ارشاد کنم. بند چهار ای خداوند خرد و ای امشاسپندان پندان لطف و انایت فیش را از ما دریغ مدارید تا در پرتو فروزگان راستی و پاکی، عشق بیالایش و فروتنی و اندیشه پاک، و نیروی معنوی کسب کرده و با پرورش آن بر هواخواهان دروغ فیروز گردیم. بانجه پروردگارا برابر آیین راستی راهی را که بهتر است به من نشان ده تا آن را برگزینم در پرتو اندیشه پاک مرا از پاداشی که برخوردار خواهم شد آگاه ساز تا احساس شادی و سرور کنم. ای خدا بند جان و خرد. مرا از همه چیز آگاه ساز. خواه آنچه چه روی داده یا در آینده رو خواهد داد. بند شش دانایی که آین راستی را گسترش دهد و مردم را از پیام مقدسی که آنها را به رسایی و جاودانی و حقیقت رهنمون است. آگاه سازد از بهترین خوشبختی برخوردار خواهد شد چون این شخصی بیگمان از نیروی اهورایی که در پرتو منش پاک افزایش میابد بهرمند خواهد گردید بنده هفت اوست نخستین اندیشگری که با نور خود افلاک را درخشان ساخت و با نیروی خرد خیش قانون راستی بیافرید تا نیکندیشان را یار و پشتیبان باشد ای خداوند جان و خرد و ای کسی که همیشه و در همه حال یکسانی با روح مقدسات فروغ ایمان را در قلب ما برفروز بنده هشت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 از آن توست آرمیتی، از توست خرد مینوی جهان آفرین، ای خداوند جان و خرد، تو به بندگان خیش نیروی اختیار راه نیک و بد بخشیدی تا این که راهی برگزینند که راه نما بدان گردیده و یا آنکه رهبر غیرواقعی نشان داده است. به عبارت دیگر، به سوی راستی و رهبر حقیقی گرایند، یا به سوی دروغ و رهبر غیرواقعی واقعی رویاورند بند ده انسان باید از بین این دو سروری راستگردار و پارسا و افساینده منش پاک را به عنوان پشتیبان و رهبر واقعی خیش برگزیند پروردگارا مباد رهبر فریبکار با تظاهر به پاکی هیچگاه از حافظه ای نیرومند، بهره گردد. بند یازده ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن، انایت فرمودی خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. صفحه چهل و سه بند دوازده همانگاه چه دروغگو و راستگو و چه دانا و نادان هر یک عقیده ای را که در دل و اندیشه دارد آشکار خواهد ساخت و هر جا تردید و دودلی وجود داشته باشد آرمیتی و مظهر ایمان و فداکاری به کمک روان شتافته و او را راهنمایی خواهد نمود بند سیزده پروردگارا تو از اندیشه و کردار آشکار و نهان همه آگاهی و همچنین از کسی که برای رهایی از خطای کوچکی به سخترین کیفر تندردهد با خبری. پروردگارا، تو همه چیز را با دیدگان روشنبین برابر قانون اشا به دقت مراقبت کرده و میبینی. بند چهارده ای هستی بخش، برای آگاهی از تو میپرسم، چه رویدادها در گذشته رخ داده و در آینده پیش خواهد آمد ای مزدا در تومار زندگانی نیکوکاران و بدکاران چه پاداش و کیفری ثبت خواهد شد و وضع آنها در روز واپسین چگونه خواهد بود از تو می‌پرسم ای هستی بخش که از رویدادهای گذشته و آینده آگاهی آیا برای مردان پارسا و نیکوکار چه مقرر گشته و در روز واپسین ای مزدا، با پیروان دروغ چگونه رفتار خواهد شد؟ بند پانزده ای هستی بخش، از تو می پرسم کیفر کسی که نیروی دروغو و زشت کردار را افضایش دهد چیست؟ همچنین کیفر کسی که هنر دیگری جز جدایی انداختن بین مردم با ایمان و رهبر راستی ندارد، چگونه می باشد. بند شانزده پروردگارا از تو می پرسم هرگاه شخص نیکندیش و با تاب و توان در راه ترقی خانه، شهر و کشور، و پیشرفت راستی و درستی کوشش کند؟ از وسال تو برخوردار خواهد گردید؟ ای هو مزدا: کی و چگونه چون این آرزویی برآورده خواهد شد. بنده هه آیا کدایک از این دو شخص درست کردار و پارسا و یا شخص زشت کردار و ناپاک؟ بهترین راه را برخواهد گزید. دانا باید با دانش خویش نادان را آگاه سازد. نشاید که نابخرد گمراه ماند. ای خداوند جان و خرد. باشد که راز و یعنی عشق خدایی و منش پاک بر همه آشکار گردد. بند هجده هیچکس نباید به گفتار و دستور شخص تبهکار و گمراه کننده گوش دهد، چون که چون این شخصی خانه و ده و کشور و شهر را به ویرانی و تباهی خواهد کشانید. پس بر ماست که در برابر این گونه مردان با سلاح پاک پاکدامنی و پارسایی ایستادگی کنیم و آنان را از خود دور سازیم. بند نوزده ای هستی بخش بشود که مردم به سخنان درست اندیش و دانایی که آموزشهایش درمان بخش روح و برای زندگی سودمند است، گوش فرادهند و آنان را کار بندند. به کسی گوش دهند ده که در گسترش آین راستی تواناست و بیانی شیرین و روان دارد. ای خداونده خرد، با فروخ تابناک دانش، سرنوشت هر دو گروه دانا و نادان را تعیین فرما. بند بیست کسی که به سوی راستی و پاکی رویاورد و پارسایی را پیش خود سازد، جایگاهش سرای روشنایی یا بهشت خواهد بود. ولی شخص دروغگو و بدکار زمانی دراز باشی و افسوس در تیرگی و کوره دشمنی به سر خواهد برد. راستی نیت پلید و کردار زشت شخص بزهکار است که او را گرفتار زندگی نکبت بار و عذاب وجدان خواهد ساخت. بند 21 خداوند جان و خرد از روی دانش و رسائی و با نیروی الهام بخش خیش کسانی را از بخشش کمال و جاودانی، پاکی و راستی، نیروی معنوی و توانایی خدمت به خلق، اندیشه پاک و زمیر روشن برخوردار خواهد ساخت که در اندیشه و کردار به او وفادار باشند. بند 22 ای اهورا مزدا، شخص خردمند و هوشیار و کسی که با منش خیش حقیقت را درک می از قانون ایزدی آگاه است و با نیروی معنوی از راستی و پاکی پشتیبانی کرده و گفتار و کردار خود را جز به راستی نخواهد آراست و در راه گسترش راستی گام برخواهد داشت. چون این شخصی نسبت به تو ای مزدا، وفادار و شایسته ترین یار و مددکار مردم به شمار خواهد رفت. احون ودگات یسنا سی بند یک برای برخورداری از بزرگترین خوشبختی، خیشان و همکاران و یاران نمازگذار تو می باشند. و دیوان یا پرستندگان قوای طبیعت نیز، اهورا مزدا خداوند جان و خرد را ستایش کرده و همگی این آرزو را دارند. پروردگارا بشود که ما هم پیام رسان تو باشیم و آنان را که از بردن نام تو نفرت دارند دور نگه داریم. صفحه چهل و شش. توضیح واجه هایی که به خیشان و همکاران و یاران ترجمه شده است در اوستا، خعه ورزنم و اعیریم نازکر گردیده. منظور سه گروهی هستند که به اش و زرتشت پیمبر ایران نزدیک بودند و از لحاظ پاکدامنی و پارسایی و بزرگمنشی از سایر پیروان برتری داشتند، در بین این سه گروه نیز به ترتیب خودمانی ها و خیشان به زرتشت بیشتر نزدیک بوده و مورد اعتماد و اطمینان او قرار گرفته بودند و بعد از آنها همکاران و یاران قرار داشتند اعضای انجمن مکها و یا انجمن برادری و زرتوش را نیز افراد سه گروه مذکور تشکیل می دادند. زیرا آنها افرادی از خود گذشته و نسبت به پیامبر وفادار بودند. البته میتوان واژه خعه را به اشخاص متکی به نفس و با ای بسیار قوی نیز ترجمه کرد. خودمانی ها یا خیشان گروهی بودند که از هر لحاظ شایستگی داشتند و بیشتر به پیغمبر نزدیک بودند. البته، نه از نقط نظر خیشاوندی، بلکه از نظر دانش و بینش و پارسایی و پرهیزکاری و راستی و درستی مورد احترام و اعتماد زرتشت بودند. این گروه افرادی بودند که در راه گسترش دین حاضر به فدای جان خیش بودند. بند دو خو خداوند جان و خرد که از روی حکمت و دانش بر جهان سروری میکند در پرتو شهریاری خیش به آنها چنین پاسخ داد. پانویش منظور سه گروه یاد شده در بند اول میباشد. ادامه متن. ارمه ایتی پاک و مقدس را که با عشای تابناک دوست نزدیک است برای شما برگذیده ایم. پانویز آرمیتی، مظهر ایمان و فداکاری و فروتنی ادامه متن صفحه چهل و هشت. بکوشید تا همیشه او را از آن خود سازید. پانویز منظور روح ایمان و فداکاری است. ادامه متن بند س ای گمراهان بت پرست شما همه از تبار و نژاد سیاه دلان و کجمنشانید کسانی که از شما پیروی کرده و به شما زیاده از حد احترام گذارند نیز از تبهکاران به شما رایند کردار مهیلانه و ریاکاری های شما از دروغ و خود ستایی سرچشمه گرفته است از این رو در سراسر گیتی به بدنامی شناخته شده اید و مورد تنفر مردم میباشید. باشید. بند چهار ای پرستان، شما اندیشه مردم را چنان پریشان ساخته اید که آنها مرتکب زشترین گناه گردند. از اندیشه پاک دوری جویند. از اراده خداوند خرد سرپیچی نمایند، و از آین راستی و پاکی گریزان باشند، و سرانجام از دوستان و یاران دیوان به شما را یند. بند پنج ای دیوها، همانطور که اهریمن نابکار با اندیشه پلید خود شما را گمراه ساخت، و با آموزش نادرست و نوید سروری و بزرگی، هواخواهان دروغ را به کردار زشت و ناپسند وادار ساخت، همانگونه شما نیز مردم را گمراه ساخته و از زندگی کامل و خوشبختی جاودانی محروم ساختید. پانویز در اینجا منظور از دیبها، آموزگاران و پیشوایان کیش پرستی هستند. ادامه متن بند 6 شخص گناهکار و گمراه ممکن است چندی با کردار زشت خیش شهرت و آوازه ای به آورد ولی ای هستی بخش تو از روی خرد و حکمت خیش همه چیز را به یاد داری و نسبت به انگیزه هرکس داوری خواهی کرد ای خدابنده خرد به راستی سرانجام با برقراری سروری آسمانی تو، آین جاودانی عشا و راستی همه جا حکم فرما خواهد گشت. بند هفت هیچ کدام از این گناهکاران، از مفهوم پیشرفت واقعی که در اثر کار و کوشش حاصل و زندگی به انسان می آگاه نیستند و از آزمایش آتشین، بیخبرند پانویس پیکار با فساد و افکار پلید و مقابله با ناهمواری های زندگی آزمایشی است آتشین. ادامه متن ای هستی بخش دانا تنها تو از فرجام گناهکاران آگاهی و درباره آنها داوری خواهی کرد. بند هشت جمشید، پسر ویونگ هان، یکی از آن گناهکاران شناخته شده است، زیرا برای جلب خوشنودی مردم و ارزای نفس خداوند جهان را خار شمرد. ای خداوند خرد، من نسبت به داوری تو در روز واپسین در مورد گناهکاران رضایت کامل دارم. بند نه. آموزگار کجندیش تعالیم مذهبی را تحریف کرده و با آموزش های نادرست خود انسان را گمراه و از هدف اصلی و واقعی زندگی منحرف می سازد. او انسان را از توجه به سرمایه گرانبهای های راستی و درستی و اندیشه پاک باز می‌دارد. ای خداوند خرد و ای مظهر پاکی و راستی. با سخنانی که از قلب و روحم تراوش می کند، به درگاهتان گله کرده و پناه می جویم. بند ده آنها با احترام به زمین و خورشید نگریستن را بدترین گناه می شمارند. زیرا تعالیم مذهبی را تحریف می کنند. آنها نیکندیشان را به سوی دروغ و گمراهی می کشانند. کشزارها را ویران کرده و بر علیه پرهیزکاران سلاح به کار می برند. بند یازده ای خداوند خرد! آنان بدکاران را به واسط شکوه و جلال مادی بزرگ می شمارند. پانویز منظور از آنان اشاره به آموزگاران کجندیش و گمراه کننده است. ادامه مجمع زنان و مردان شریف را از رسیدن به آرزوی خود و برخورداری از بخشایش ایزدی باز می‌دارند. پارسایان و راستی گرایان را پریشان و منحرف می سازند و زندگانی را فاسد و تباه می کنند. بند دوازده آنها با آموزش نادرست، کوشش می‌کنند مردم را از انجام کار نیک و شایسته باز دارند و با گفتار فریبنده مردم را گمراه ساخته زندگانی آنها را تباه سازند آنان در اثر کجندیشی گرگهای درنده‌ای چون گرهما و کرپان‌ها را بر راستان و پاکان برتری داده و برای هواخواهان دروغ آرزوی سروری می کنند ولی مزدا خداوند خرد برای آنان کیفر سختی مقرر داشته است بند سیزده قدرتی که این گرگان حریص یعنی گرهما در راه تباهکاری و کجندیشی به درفت میآورند سرانجام موجب بدبختی و تباهی زندگی خود آنها خواهد گشت ای خداوند خرد آنگاه همین گرگان آزمند با میل شدید آرزوی پیام مقدس آور تو را خواهند داشت پیاماوری که نیکان و پاکان را در برابر تهدید دشمنان حفظ خواهد کرد بند چهارده دیربازی است که گرهمای آزمند با کمک کاوی ها اندیشه و نیروی خود را برای بدامنداختن پیامآور تو متمرکز ساختند. پانویز. کاوی کاویها دشمنان زرتشت و فرمان که حاضر به شنیدن سخنان متین و الهام بخش پیامبر ایران نبودند، و با کمک گرهما سعی در نابودی زرتوشت داشتند ادامه متن آنان از هواخواهان دروغ و گمراهان یاری جویند و برای جهان آفرینش فساد و تباهی آرزو کنند بدین امید که شکست ناپذیر آنها را یاری خواهد کرد پونهویش اشاره به ایزد هوم است که با صفت شکست نپذیری توصیه شده است. این ایزد طرف توجه دروف پرستان بوده است. ادامه متن. بند پانزده به راستی کومی و کرپان سرانجام به دست همان کسانی که از آنها سلب آزادی کرده اند شکست خورده و تباه خواهند گشت. و آنان که از نعمت آزادی محروم بوده اند در پرتو دو بخشش ایزدی یعنی کمال و جاودانی از سرای منش پاک یا بهشت بهره خواهند برد. پانویز کوی و کرپان در اینجا به مفهوم سران و بزرگان دیوی آمده و به کسانی اطلاق شده است که در دیدن و شنیدن حقیقت امدان کورو کر هستند. ادامه ی متن صفحه 52 بند شانزده به آموزش واقعی و خردمندانه‌ی شخص پارسا بهتر از هر چیزی است ای خداوند خرد و هستی بخش بزرگ تو توانایی برهم زدن نقشه کسانی است که مرا به آزار تهدید میکنند من کوشش میکنم نفرت و دشمنی هواخواهان دروغ را نسبت به پیروان و دلباختگان تو باز دارم اهونودگات هات 33 بند یک هر کس در این جهان باید برابر آیین عذلی اشا یا راستی که بنیاد زندگی را تشکیل می دهد، رفتار کند. زیرا رتویا، رهبر روحانی، با کمال بی و از روی وجدان، نسبت به نیکان و بدان داوری خواهد کرد و کردار نیک و زشت آنها را با دقت خواهد سنجید. نوار شماره سه کتاب یا سرودهای آسمانی زرتوشت به قلم موبد فیروز آذرگش شسب صفحه 52انگات، هات سیسه بند یک. هرکس در این جهان باید برابر آین عذلی عشا یا راستی که بنیاد زندگی را تشکیل می دهد، رفتار کند.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 و یا آنان را به راه راست رهبری کند، به درستی چون این شخصی خاست پروردگار را انجام داده و به خداوند جان و خرد عشق میورزد. بند سه ای خدای هستی بخش کسی که به نیکان و پاکان خواه از گروه خودمانی و همکار و خواه دوست با مهر و داد رفتار کند، و کسی که از آفرینش نیک پروردگار نگهداری نماید، راستی چون این شخصی از کشور خرم راستی و منش پاک یعنی بهشت برخوردار خواهد شد. بند چهار ای خداوند خرد، تو را پرستش کرده و آرزو دارم بی ایمانی و بدندیشی از بندگان نیک تو دور گردد. همچنین آرزو دارم از خودمانی ها خیرسری و کشخیالی، از همکار فریب و دشمنی نزدیکان و از دوست ناسزاگویان و نکوهش کنندگان و از پهنه جهان هستی رهبر دروغپرداز پرداز و فریبکار دور گردد. بند پنج برای رسیدن به آرمان و هدف خیش، سروش بزرگترین یاورها را به کمک می طلبم و آرزو دارم از زندگانی دراز برخوردار و به کشور منش پاک درایم. پانویز منظور از کشور منش پاک بهشت است. ادامه متن با کمک راستی و پاکی و پیمودن راه پارسایی به جایگاهی که ملکوت آسمانی اهورا مزداست، راه یابم. بند شش پروردگارا چون پرستنده پرهیزکاری که به راستی و پاکی ایمانی استوار دارد، با تمام وجودم روح پاک تو را میستایم و از اندیشه حکمت بارد خواستارم مأموریت ارشاد و رهبری را چنان که اراده توست، انجام دهم ای خداوند جان و خرد آرزو دارم به دیدار و مشورت با تو مانند یک دوست آیم بند هفت ای از همه بهتر و ای خداوند خرد به سوی من آیید و خودتان را به من آشکار سازید تا در پرتو راستی و منش پاک گذشته از انجمن مغان دیگران هم به سخنانم گوش فرادهند. پروردگارا ما را از تکالیف بایسته و احترامات شایسته و در خورخیش بیاگاهان و روشن ساز بنده هشت پروردگارا هدف نهایی و معموریتم را به خوبی به من نشان ده تا در پرتوه اندیشه پاک آن را انجام دهم و ستایش تو را ای خداوند خرد به جایارم. پروردگارا سرود ستایشم را که از روی راستی و قلبی پاک تراوش می کند بپذیر و بخشایش رسایی و جاودانی را به من ارزانی فرما. بند نوح ای خداوند خرد، این دو روی بزرگ افزاینده راستی و پاکی را که از آن توست تنها با خرد و دانش و فروغ بصیرت و بینش به دست توانا ورد. پانویز منظور از این دو روی بزرگ رسایی و جاودانی است که در بند پیش بدان اشاره شده است. ادامه متن بشود که در پرتو بهترین منش از بخشایش این دو روی همکار و یکسان برخوردار گردیم. صفحه 55، بند ده ای خداوند خرد! آسایش و خوشیهای زندگی که بوده و هست و خواهد بود همه از توست. پروردگارا از روی مهر و کرم خیش آنها را به ما ارزانی دار و در پرتوه منش پاک و نیروی راستی و درستی ما را با خوشبختی جاودانی هم قرین ساز. بند یازده ای اهورا مزدای توانا، ای تواناتر از همه با آرمیتی مظهر ایمان و فداکاری اشا یا راستی مایه آباد کننده جهان، ومومن، مظهر اندیشه پاک و محبت و خشت را، مظهر نیروی معنوی و اقتدار ملکوتی به من گوش دهید و در آن روزی که به هر یک پاداش کردار بخشند به من مهربان باشید و آمرزش خود را از من دریق مکنید. بند دوازده ای اهورا ای خدای هستی بخش خودت را بر من آشکار ساز و در پرتو ایمان و فداکاری به من نیروی معنوی بخش ای خداوند خرد بیاری پاکترین روح روح القدس خود پرستشم را با پاداش ها به بیاری راستی و پاکی مرا از نیروی بسیار برخوردار ساز و در پرتو وحومن یا خرد و منش پاک سروری و رهبری مردم را به من بخش. بند سیزده ای پروردگار تیزبین، برای خودداری از شادمانی و خوشبختی بخشایش بیمانندت را به من بنما. پانویس. پروردگار تیزبین یعنی آگاه از آینده دور ادامه متن. ای هستی بخش، بخشای شیرا که از خشت را مظهر قدرت و ملکوت آسمانی تو و وحومن مظهر منش پاک و محبت به هم نوع سرچشمه به من ارزانی دارد. ای آرمیتی مقدس، ای مظهر عشق و بردباری و ایمان به خدا، به وسیله راستی دلهای ما را روشن ساز، تا نفس واقعی و زمیر باطنی خود را درک نماییم. پنده چهارده زرتشت همه جسم و جان خود را با برگزیده ترین منش پاک خود، چون پیشکشی بی ارزش به خداوند خرد نیاز می و با فرمان برداری از دستورات الهی و سرسپردگی کردار و گفتار و همه نیروی خود را به عشاق ارمغان می آورد. منظور آن است که زرتوشت با تمام نیرو و سرسپردگی کردار و گفتار خود را با راستی خواهد راست و در راه راستی جان خود را فدا خواهد نمود. ادامه مطم صفحه 57. و هفت سی و بند یک ای مزدا، رفتار و گفتار نیک و پرستش بیریایی که در پرتو آنها، مردم از بخشایش جاودانی و پارسایی و نیروی معنوی و رسایی برخوردار میگردند می‌گردند همه را نخورد به تو ای خداونده هستی بخش پیشکش می‌نماییم بند دو پروردگارا مرد نیکندی و پارسایی که روانش با راستی همگام است تنها به تو می‌اندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز می کند. پانویز کار خود را با نام تو و با توکل به تو انجام می دهد. ادامه متن. ای اهورا مزدا، بشود که نیایش کنان و سرود ستایش گویان به تو نزدیک شویم. بند ای خداوند هستی بخش، با کمال احترام آنچه در خور و سزاوار تو و عشا مظهر راستی و پاکی است، به جامعه وریمه. بشود که همه جهانیان در پرتوه منش پاک و در کشور جاودانی تو به رسایی رسند. ای خداوند خرد، راستی مرد دانا و روشنبین هماره از نیروی معنوی، برخوردار می باشد بند چهار ای خدای هستی بخش ما فروغ توانای تو را که در پرتوه راستی فروزان است خواهانیم آن شعله فروزانی که ابدی و نیرومند است و پیروان راستی را آشکارا رهنمون گشته و یاری می بخشد ای خداوند خرد همین شعله فروزان است که پلیدی نهفته در نهاد بدخواهان را آنن آشکار می سازد. بند پنج پروردگارا چه شگرف است نیروی تو؟ چقدر آرزو دارم ای خداوند خرد که با کردار نیک و خدمت به بشر و در پرتوه راستی و منش پاک و دستگیری از وارستگان و بیچارگان به تو پیوندم. پروردگارا، تو را برتر از همه میدانیم و مخالف خدایان دروغین و تباهکاران میشماریم. بنده بند شش ای خداوند خرد، ای مظهر راستی و روشندلی، چون راستی تو را چونین برتر و بالاتر از همه شناختم پس آرزومندم در سراسر دوران زندگی مرا راهنمایی کنید تا با صمیم قلب و ایمان کامل تو را ستایش و نیایش کرده و به سویت بازگردم بنده هفت ای مزدا کجایند ستایشگران با وفایی که در پرتو منش پاک و آگاهی از آموزش های پرعرج آین هنگام بدبختی و سختی از تو روی بر نتابند و با هوش و درایت آن آموزش ها را به کار بندند و در گسترش پیک مقدس تو بکوشند. پروردگارا کسی دیگر را جز تو نمی و خواستارم ما را در پرتوه راستی، یاور و پناه باشی بنده هشت به راستی دروخ پرستان با کردار زشت خیش ما را هراسان سازند چونکه آنان تباهی و ویرانی بر مردم آورند و نیرومندانشان بر ناتوانان ستم روا دارند ای خداوند خرد آنان به آیین مقدس تو یعنی قانون عشا توجهی نکرده و همیشه از راستی روگردانند و منش پاک از آنها گریزان است. پانویز منش پاک از آنان گریزان است. منظور اشخاص عاقل و نیکندیش است که از درو پرستان گریزانند. ادامه متن صفحه پنجاه نه بند نو. ای مزدا، کسانی که با زشت کرداری و بیخبری از منش پاک فروزگان سپنتا آرمیتی را که نزد بخردان گرامی است خارش از آنان راستی دور خواهد ماند چنانکه که با تمایلات پلید شیطانی خیش از ما دوری جویند پانویست عشق و فداکاری و ایمان و فروتنی از فروزگان آرمیتی می باشد. ادامه ی بند ده مرد خردمند با آگاهی از اینکه عشق و ایمان به خدا سرچشمه واقعی راستی است، گمراهان و زشتکاران را به پرورش منش پاک و انجام کار نیک و مهرورزی به دیگران اندرز خواهد داد. و سرانجام ای خداوند جان و خرد، همه زشت کرداران با آگاهی از حقیقت به سوی تو خواهند آمد. بند یازده پروردگارا دو بخشش رسایی و جاودانی مردم را به فروغ معنوی و روشن درونی خواهد رسانید. در پرتوه نیروی اراده، منش پاک، راستی و پاکی، عشق و ایمان به خدا، زندگانی پایدار و نیروی معنوی، افزایش خواهد یافت. ای خداوند خرد، در پرتوه این فروزگان، دشمنان فیروزی یافت. بند دوازده پروردگارا کدام است آین پیش رفت و چیست اراده تو؟ چه نیایش و پرستشی سزاوار توست، ای خداوند خرد، آن را آشکارا به ما بنمای، تا با پیروی از دستورات تو، از پاداشی که نوید داده شده است، بهرهمند گردیم. پروردگارا در پرتو راستی، راه پاکمنشی و خودشناسی را به ما بیاموز. بند سیزده ای خدای هستی بخش راهی که به من نشان دادی راه نیک منشی است راهی که بر مبنای آموزش سوشیاندها سودرسانندگان و نجات دهندگان قرار گرفته است. آموزشی که توصیه می کند هر کار نیکی که به منظور انجام کار و در پرتو راستی انجام شود شادمانی به بار خواهد آورد. آموزشی که انسان را به خرد و دانش واقعی رهبری می و پاداش آن رسیدن به توست. ای خداوند خرد! بند چهارده ای خداوند خرد! کسانی از آن پاداش گرانبها که نوید داده شده، بهرمند خواهند گردید که کار را از روی خرد و منش پاک انجام دهند. برای پیشرفت و آبادانی جهان کوشش نمایند، خواست خداوند هستی بخش را برآورده سازند و در پرتوه راستی و پاکی در پیشرفت اراده الهی کوشا باشند. بند پانزده ای خداوند خرد، مرا از بهترین گفتار و کردار بیاگاهان تا در پرتو این آموزش، با اندیشه روشن و قلبی پاک ستایشت را به جای آورم. ای هستی بخش بزرگ. با نیروی خیش چنان ساز که از یک زندگی نوین و سرشار از راستی بهر مند گردم. صفحه 62. ودگات حات چهل بند یک مزدا که فرمانروای مطلق است، چون مقرر فرموده، خوشبختی از آن کسی است که دیگران را خوشبخت سازد. پروردگارا، برای استوار ماندن به آین راستی، از تو نیروی تن و روان را خواستارم، ای آرمیتی، ای مظهر ایمان و محبت، آن پرتو ایزدی که پاداش زندگانی سراسر است به من ارزانی دار. بند دو راستی چون این کسی از بهترین بخشایش ایزدی برخوردار خواهد شد. پانویز اشاره به کسی است که دیگران را خوشبخت سازد و در بند اول مورد بحث قرار گرفت. ادامه متن. کسی را که آرزوی روشندلی است و برای رسیدن به آن تلاش می کند، ای مزدا در پرتو خرد مقدس و آگاه خیش، بدون روشنایی درون ارزانی دار. پروردگارا، در پرتو اشا قانون ازلی راستی و پاکی ما را از حکمت و دانش که از بخشایش است، برخوردار ساز تا زندگانی دراز از شادی و سرور بهرهمند گردیم. بند سه به راستی کسی از بهترین نیکی برخوردار خواهد شد که در جهان مادی راه راستی و خوشبختی به ما آموزد و در جهان مینوی ما را رستگار سازد. راهی که ما را به جهان حقیقت و راستی، آنجا که بارگاه قدس است، رهبری کند. ای مزدا، شیفتگان حقیقت و دلدادگان تو، در پرتو خرد و تقدس، سرانجام به تو خواهند پیوست، بند چهار ای مزدا هنگامی تو را نیرومند و پاک خواهم شناخت که در پرتو تواناییت آرزوهای ما برآورده شود و هواخواهان راستی و دروغ هر دو به پاداش و کیفر مقرر رسند. آنگاه که فروغ تو در قلبم بدرخشد و گرمی بخشد روانم نیروی راستی را احساس کرده و اندیشه پاک با تمام توان به من روی خواهد آورد. بند پنج ای مزدا اهورا، خداوند جان و خرد. آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که تو را سرآغاز زندگی ازلی یافتم. زمانی که برای اندیشه و گفتار و کردار نیک، پاداش معین فرمودی و در پرتو خرد و حکمت خیش مقرر داشتی که بدی از برای بدان و نیکی از برای نیکان خواهد بود و این امر تا روز واپسین و پایان هستی ادامه خواهد داشت. بند شش ای مزدا در آن زمان که خرد پاکتو، خشت را و وحومن به سوی ما آیند، آنگاه جهان هستی به سوی راستی و درستی پیشرفت خواهد کرد، و فرشته آرمیتی نور محبت و ایمان را در دل رادمردان روشن کرده، آنها را به سوی حقیقت رهبری خواهد نمود، و هیچ کس را یارای فریفتن پروردگار مظهر خرد و حکمت نخواهد بود، صفحه 64. و چهار. بنده هفت آنگاه ای مزدا اهورا تو را پاک و مقدس شناختم که پاک به من روی آورد و از من پرسید کیستی و از کدام خاندانی هنگام تردید و دودلی چراهی را برخواهی گزید راهی که به سود برادران و نزدیکان توست و یا آنکه به سوی خودت میباشد بند هشت آنگاه چنین پاسخ دادم من زرتشت دشمن سرسخت دروغ و دروغگویان هستم و تا آنجا که مرا نیرو و توان است با آنها پیکار خواهم کرد ولی با تمام قدرت یا و پشتیبان نیکان و درست کرداران خواهم بود. پروردگارا، بشود که از نیروی معنوی و بیکرانت، برخوردار گردم و همیشه سرس پرده و ستایشگره تو باشم، ای مزدا. بند نو ای خداوند جان و خیرد، آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم، که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت. پرسیدم چه کسی را خاستاری پیش از همه مورد نماز و ستایش قرار گیرد. پانویس پرسش کردن زرتشت از وهومن منظور بررسی حقایق با دیده روشنبین و اندیشه ژرف و نیک است. ادامه مطم خود چون این پاسخ گفتم تا زمانی که مرا نیرو و توانست، است فروغ تابناک و معنوی تو را ای مزدا می ستایم و به آین راستی دل خواهم بست پانویس فروغ تابناک و معنوی منظور فروغ ایمان به خدا می باشد ادامه متن صفحه 65 و پنج. بند ده پروردگارا مرا به سوی راستی و پاکی که نهایت آرزوی من است رهبری کن تا با پیروی از آرمیتی مظهر ایمان و محبت به رسائی نائلایم پروردگارا اکنون ما را بیازمای تا ایمان خود را به ثبوت رسانیم آزمایش های تو چنان است که به انسان نیروی معنوی خواهد بخشید به ویژه رهبرانی که از سوی تو ای مزدا الهام گرفتهاند با نیرو و شهامت مردم را راهنمایی کرده و مشیت تو را انجام خواهند داد پانویز آزمایش ها منظور تحمل ها و های زندگی است که زرتشت با آن روبرو بود. ادامه مطلب. بند یازده ای خداوند جان و خرد، آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش نیک به من روی آورد و در پرتو سخنان الهام بخش تو بصیرت و بینش یافتم. هرچند دریافتم که ایجاد ایمان در دل مردم کاری است بس دشوار ولی پروردگارا من آنچرا که از دیدگاه تو بهترین کار شناخته شده است با کوشش و فداکاری انجام خواهم داد بند دوازده آنگاه که به من فرمودی با دانش کامل از راستی پیروی کن سخنی گفتی که خواسته قلبی من بود من کوشش خواهم کرد تا فرشته سروش یا ندای وجدان را در درونم بیدار کرده قلبم را از پرتو ایزدی روشن سازم و به این حقیقت آگاهی حاصل کنم که هرکس از گروه نیکان و بدان آنچرا سزاوار است به دو پاداش بخشیده خواهد شد بند سیزده ای خداوند جان و خرد آنگاه تو را پاک و مقدس شناختم که منش پاک به من روی آورد و نور حقیقت و معرفت به قلبم راه یافت پروردگارا برای رسیدن به قایت آمال و آرزوهای خیش زندگانی دراز به من ارزانی دار آن چیزی که جز تو کسی دیگر را یارای بخشیدن نیست، آن زندگانی مطلوب و آرزو شده که سرشار از خدمت به هم نوع و فعالیت برای پیشرفت جهانیان بوده و به خشت تو بستگی دارد. پانویس منظور از خشت قدرت جسمانی و نیروی اراده و معنویت در راه انجام خدمت به مردم، و فعالیت برای آبادانی و پیشرفت جهان می باشد. خشت را به مفهوم تسلط بر نفس و چیرگی بر امیال و حبس ها نیز می باشد. ادامه متن صفحه شست بند چهارده ای مزدا، آنسان که مرد دلیر و توانایی، به دوست خود مهربانی کرده و او را آرامش میبخشد به پیروانم شادی فزون از اندازه بخش آن شادی و سروری که در پرتو راستی بدست آید و در قدرت شهریاری توست پروردگارا من از آین راستی و همه کسانی که پیامآور آسمانی تو را می سرایند، پشتیبانی خواهم کرد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 با هواخواهان دروغ از در آشتی درآید زیرا آنان پرهیزکاران و درست کرداران را دشمن همیشگی خود پندارند بند شانزده ای خداوند جان و خرد زرتشت برای خیش پاکترین خرد را به منزور راهنما برگزید بشود که راستی و درستی زندگانی مادی ما را نیرومند سازد بشود که نیروی معنوی با نور ایمان و محبت چون پرتو درخشان خورشید قلوب ما را روشن سازد پروردگارا به کسانی که در پرتو منش پاک و عقل و خرد کاری انجام می‌دهند پاداش بخش چهار بند یک ای هستی بخش یک تا با فروتنی از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکارسازی. سازی آیا پرستش تو را چگونه باید به جای آورد ای مزدا قلب من از مهر تو لبریز است بگذار کسی که تو را خوب میشناسد راه درست را به من نشان دهد پروردگارا بشود که در پرتو راستی و درستی از یاری تو برخوردار گشته و دیده دلمان از نور پاک منشی و جرف بینی روشن گردد بند دو ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا سرچشمه بهترین و والاترین زندگی معنوی کدام است؟ آیا کسی که برای دست یافتن به آن تلاش می کند، چه پاداشی خواهد یافت؟ ای مزدا، اونست رهبر ما که در پرتوه راستی و درستی مقدس است، اون برگزیده نژاد بشر، پاسدار مردم، درمان بخش زندگی، یک دوست واقعی و روحانی به تمام معنی است. بند سه ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا در روز ازل چه کسی آفریدگار و سرچشمه راستی بوده است چه کسی راه سیر خورشید و ستارگان را تعیین فرمود کیست آنکه ماه را گاهی بدر و گاهی هلال ساخت ای مزدا من میخواهم از همه این حقایق و بسا چیزهای دیگر آگاهی یابم بند چهار ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چ نیرویی زمین را در پایین و سپه را در بالا نگه داشته است و از فرو افتادنش جلوگیری می کند. کیست آفریننده ی آب و گیاه کیست آنکه به باد وزش و به تیر ابر بارانزا توند روی بخشید. ای مزدا کیست آفریننده و الهام بخش منش پاک؟ بند پنج ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. آیا آفریننده روشنایی و تاریکی کیست؟ آیا خواب و بیداری و حالت آرامش و فعالیت را چه کسی پدید آورد؟ کیست پدید بامداد و نیم روز و شب که مرد دانا را به انجام وظایف روزانه خود هشدار می بند 6 ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی آیا آنچه را که بیان خواهم کرد حقیقت دارد آیا عشق و ایمان به خدا در پرتوه کار نیک راستی و درستی افزایش خواهد یافت آیا در پرتو منش پاک نیروی ایزدی پدید خواهد آمد. آیا این جهان بارور و شادی بخش را برای که آفریدی؟ بند هفت ای هستی بخش یک تا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چه کسی ایمان به خدا و نیروی خدمت به برادران نوعی را در ما پدید آورد؟ چه کسی از روی خرد و فرزانگی احترام و محبت پدر را در دل فرزند نهاد؟ ای مزدا، من میکوشم تا در پرتو خرد پاک تو را آفریننده همه چیز بدانم؟ بنده هشت ای هستی بخش یکتا. پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی، تا بتوانم ای مزدا، در مورد آنچه که از سوی تو الهام شده است، بیاندیشم. پروردگارا خواستارم در پرتو منش نیک آموزش های تو را درک نمایم و در پرتو راستی و پاکی، از رسایی در زندگی برخوردار گردم. پروردگارا: چگونه و با انجام کویی هایی روانم از شادی و آرامش بهرهمند خواهد شد. بند نه ای هستی بخش یکتا. پرسشی از تو دارم، و خاستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه وجود خود را در دربست در انجام خدمت مقدس با تمام نیرو و توان به تو کنم؟ این حقیقت را دانش دین به من می ای مزدا، فدایی تو در پرتوه راستی و منش پاک و خدمت به مردم با تمام نیرو سرانجام در جایگاه تو یعنی بهشت معوا خواهد گزید. بند ده ای هستی بخش یکتا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. پروردگارا از آیین الهام بخش خود که برای مردم جهان بهترین موهبت است مرا آگاه ساز آینی که با راستی همگام بوده و به پیشرفت جهان هستی کمک می کند پروردگارا آرمیتی یا نور ایمان را در قلبمان روشن ساز تا در پرتو آن کارهای ما به سوی راستی و درستی گرایش پیدا کند ای مزدا ما را هدایت فرما تا خواست تو آرزوی نهایی ما رسیدن به تو باشد. صفحه 721 بند ای هستی بخش یک تا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه ایمان به خدا و نرم و مهرورزی در قلب کسانی که آیین الهام بخش تو برایشان اظهار شده است جای خواهد گرفت پروردگارا می‌دانم که تو مرا برای انجام این کار بزرگ به عنوان نخستین آموزگار برگزیده‌ای ای. این تنها کسانی که تو را فرمان بردارند از دوستان و دیگران را دشمن خواهم شمرد بند دوازده ای هستی بخش یک تا پرسشی از تو دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی آیا به کدام یک از طرفین راستی یا دروغ رویاورم آیا با هواخواهان دروغ که سیاه کارند گفت گو کنم یا با کسانی که از بدکاران رنج میبرند. آیا دروغ پرستانی که بخشایش گرانبهای تراخار خار شمارند، اندیشه و قلب آنها را سیاهی دروغ و زشتی فرا نگرفته است؟ بند سیزده ای هستی بخش یک تا از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه باید دیو دروغ را از خود برانیم؟ پروردگارا از اشخاص بیدین و ایمان دوری خواهم گزید. از کسانی که پیوند خود را با راستی و خرد گسسته و نسبت به منش نیک دلبستگی نشان نمی دهند، و کوششی در راه گرایش به این فروزگان ویژه نمی پرهیز خواهیم کرد. بند چهارده ای هستی بخش یکتا. از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه باید دروغگو را به دست راستی سپرد تا با آموزش کلام آسمانی، روحش از آلودگی پاک گردد. ای مزدا با وارد ساختن شکست کامل به هواخواهان دروغ و تباه فریب و نفرت آنها را از بین برده و بی اثر خواهیم ساخت. بند پانزده ای هستی بخش یکتا. از تو پرسشی دارم و خاسرا حقیقت را بر من آشکار سازی پروردگارا براستی تو توانا هستی که در پرتو عشا مرا از گزند فریبکاران و نفرت دروگویان نگهداری فرمایی هنگامی که دو سپاه دشمن در برابر یکدیگر سفاراهی کرده و به هم میتازند آنگاه ای مزدا برابر قانون ایزدی کدامیک از دو گروه مزدا پرستان و هواخواهان دروغ و در کجا از فیروزی برخوردار خواهند شد. بند شانزده. ای هستی بخش یکتا از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. کیست آن شخص دلیر و فیروزمندی که در پرتو آموزش های ایزدی ما را پناه بخشد؟ پروردگارا از راه الهام رهبر دانا و درمان بخش زندگی را به من نشانده و او را با سروش روح فرمانبرداری از دستور ایزدی و روشن زمیری برخوردار ساز پروردگارا این دو بخشش بزرگ را به هر کس که دوست داری، ارزانی فرما. بنده هفته ای هستی بخش یکتا! از تو پرسشی دارم و خواست دارم حقیقت را بر من آشکار سازی. ای مزدا! چگونه با راهنمایی تو به هدف و آماج خیش، که پیوستن به تو و یکی شدن با معشوق است دست خواهم یافت. پروردگارا کی با گفتار شیوا و موثر و در پرتو عشا و پیام آسمانی تو که بهترین راهنماست مردم را به سوی رسایی و جاودانی رهبری خواهم کرد. بند هجده. ای هستی بخش یک تا، از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی. چگونه در پرتو اشا و راستی و پاکی پاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر دهمادیان حواست با نیروی اسب اندیشه است به دست خواهم آورد و به روشنایی حقیقی و سرمدی خواهم رسید. پانویس در این بند واژههایی مانند مادیان و اسب و شطور به رفته است که زرتشت به عنوان پاداش از خداوند آرزو کرده است گرچه واجه های مذکور به صورت ظاهر معنی حیوانات را می‌دهد ولی در باتن رمزهایی است که دارای مفاهیم ارفانی و معنوی می باشد. زمنن حواس دهگانه شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی، لمس کردن، توانایی، پویایی، کارایی، فهمیدن به مادیانهایی تشبیه شده اند که انسان را به پردگاه بدبختی و بیچارگی می و تنها اسب نیرومند اندیشه است که می تواند مادیانهای حواس را مهار کرده و بر آنها تسلط پیدا کند و به اشتر یا روشنایی حقیقی و سرمدی دست یابد و نور حقیقت را به عنوان پاداش دریافت کند ادامه متن صفحه هفتاد و چهار ای مزدا از رسایی و جاودانی کی برخوردار خواهم شد تا هر دو بخشش بزرگ را برای رستگاری به مردم جهان ارمغان دهم بند نوزده ای هستی بخش یکتا از تو پرسشی دارم و خواستارم حقیقت را بر من آشکار سازی پروردگارا هنگامی که شخص نیازمند و راستگو به جای کمک و پاداش از توانگران پاسخ سرد میشنود چه سزایی برای این گونه احمالکاران مقرر فرموده ای؟ من از کیفری که برابر آین ایزدی، پس از مرگ و در روز واپسین در انتظار آنهاست، به خوبی آگاهم. بند بیست ای مزدا، از تو می چطور امکان دارد دیوان از شهریاران نیک باشند. کسانی که برای ارزای حوثهای خیش و انجام مقاصد خودخواهانه میجنگند و با کمک کرپان و کاویان و اوسی خش جهان را به دست خشم و نفرت سپرده و جهانیان را به نال و فقان در میآورند. آیا اینها هیچگاه کوششی خواهند کرد تا در پرتو راستی و درستی موجب پیشرفت و آبادانی جهان گردند و آشتی و آرامش را برقرار سازند و گسترش دهند؟ پانویس کاویان و کرپان و اوسیخش از گروه مخالفین سرسخت اشو زرتوشت پیشوایان دینی دروف پرستان بودند ادامه مطم صفحه 75 دو پنج. ودگات چهل و پنج، بند یک ای کسانی که از دور و نزدیک برای آگاه شدن آمده اید من اکنون برایتان سخن خواهم گفت گوش فرادهید و بشنوید حقایق روشنی را که برای شما میآموزم با دقت به خاطر بسپرید مبادا بار دیگر آموزگار بدخواه زندگانی مردم را تباه سازد و دروغ پرست با کجاموزی خویش آنان را گمراه نماید بند دو اکنون درباره دو مینو یا دو گوهری که در آغاز زندگانی وجود داشتهاند سخن خواهم گفت از این دو گوهر آن یکی که پاک و مقدس بود به همزاد خیش گوهر پلید چنین گفت هیچگاه اندیشه و آموزش و اراده و ایمان و گفتار و کردار و وجدان ما با یکدیگر سازش نداشته و از هم جدا هستند بند سه اکنون از حقایق و اصول آین زندگی آنچنان که هستی بخش دانا به من آموخت آشکار خواهم ساخت کسانی که کلام مقدس را به کار نبندند و چنان که من آموخته پیروی پیروبی نکنند پایان زندگی آنها پشیمانی و آه و افسوس خواهد بود. بند چهار اکنون از بهترین هدف و آمال زندگی سخن خواهم گفت و حقیقتی را که در پرتوه اشا دریافته بیان خواهم داشت. و آن اینکه آین زندگی در پرتو راستی را مزدا. خدای یکتا و دانا مقرر فرمود. پروردگاری که سرچشمه منش نیک و فعال است و ایمان و محبت دختر نیکوکار او به شمار می رود. هستی بخش یکتا و از همه چیز آگاه را نتوان فریفتن. بند پنج ایدون از سخنانی که از سوی پروردگار به من الهام شده است، گفت و خواهم کرد. سخنانی که شنیدن و کار بستن آن در زندگی برای مردم بهترین است. کسانی که این آموزش ها را با جان و دل پذیرا شده و فرمانبرند، از بخشش رسایی و جاودانی برخوردار خواهند شد، اندیشه نیک آنها را به انجام کار نیک و شایسته رهنمون خواهد گردید و سرانجام به زیارت اهورا مزدا و روشنایی حقیقی نائل خواهند شد صفحه 77 بند 6 من اکنون از کسی که برتر و بزرگتر از همه است سخن خواهم گفت با راستی و پاکی سرور دانا و پرتوهایش را ستایش می کنیم و آرزو داریم هستی بخش یکتا در پرتو خرد مقدس خیش نیایش ما را بشود بشود که در پرتو منش پاک و محبت و ایمان به او دست یابیم پروردگارا در پرتو خرد ما را به سوی روشنایی حقیقی یا آنچه که بهترین است رهبری فرما بنده هفت همه رستگاری را از او خواهانند چه آنان که زندند و چه کسانی که از جهان رفته و یا در آینده پا به عرصه وجود خواهند گذاشت روان شخص پارسا و درست کردار کام روا گشته و از بخشش جاودانی برخوردار خواهد شد، ولی هواخواه دروغ و تبهکار از درد و عذابی که همیشه تجدید میگردد رنج خواهد برد. این قانون را هستی بخش دانا و یکتا از توانایی خیش مقرر فرموده است، بند 8 چون اهورامزدا را با دیده دل دیدم کوشش خواهم کرد با سرودهای ستایش توجهش را به سوی خود جلب کنم و از آنجا که با اندیشه و گفتار و کردار نیک و در پرتو راستی و درستی دریافتم که اهورامزدا هستی بخش دانا و پروردگار یکتاست بنابراین نیایش های قلبی و ستایش خود را به بارگاه مقدسش نیاز می کنم. صفحه 728 بند 9 لطف و بخشایش پروردگار و وحومن منش پاک را خواستارم. چون که بخواست تو اراده پروردگار، شادی و رنج هر دو برای ما آفریده شده است. بشود که هستی بخش دانا در پرتوه توانایی خیر، نیروی کار کردن و خدمت به ما ارزانی فرماید تا با منش پاک و دانش مردم را به سوی راستی و حقیقت پیشرفت دهیم. بند ده با درود و ستایش قلبی و ایمانی پاک او را بزرگ خواهیم داشت کسی که در پرتوه نیروی خیش هستی بخش دانا و یکتا و آفریدگار هر دو جهان نامیده شده است. پروردگاری که در پرتوه قانون ازلی و اندیشه رسا و شهریاری خیش به مردم جهان رسایی و جاودانی نوید داده است. و آنها را به برخورداری از نیروی تن و پایداری روان امیدوار ساخته است. یازده کسانی که با پرستان و هواخواهان آنها دشمنی ورزند و همچنین کسانی که نام پروردگار را به نیکی یاد کرده و های دانا و یاور دین راستین را گرامی دارند، مزدا اهورا با آنان چون دوستی سمیمی و برادر و پدری مهربان خواهد بود، و راهشان با کسانی که یک تا اهورا را خار شمارند و از اون بزشتی یاد کنند، کاملا جداست. صفحه 79. پات چه ش بند یک به کدام سرزمین رویاورم به کجا رفته پناهجویم؟ خیشانم مرا ترک گفته و دوستانم از من رویگردانند. از همکاران کسی مرا خورسند نمیسازد و فرمانروایان کشور نیز همگی؟ به دروغ گرایش یافتند ای هستی بخش بزرگ چگونه خواهم توانست با انجام مأموریت تو را خوشنود سازم بند دو ای مزدا من از ناتوانی و تنگ دستی خود آگاهم زیرا خواستم کم و یاران و هوا اندکند. ای هستی بخش یک تا روی به درگاه تو می آورم مانند ای که از دلبر خیش خواستار نظر لطف و محبت و خوشبختی سرمدی باشد پروردگارا در پرتو قانون ازلی عشا راستی و پاکی مرا از نیروی نیکندیشی و محبت برخوردار ساز بند سه ای مزدا کیس پیده دم نیک بختی به خواهد آمد و مردم جهان به سوی راستی و پاکی روی خواهند آورد. کی نجات دهندگان بشر با دانش و خرد و آموزش های معصر خیش مردم را رهبری خواهند کرد. و من مظهر اندیشه پاک به چه کسی گرایش پیدا خواهد کرد. ای هستی بخش، من تنها تو را به عنوان آموزگار و سرور خود برگزیدم. بند چهار هواخواهان دروغ کوچش دارند پارسایان و پرهیز کاران را از پیشرفت رفت به سوی هدفهای مقدس خیش یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور باز دارند. آنها با کردار خسمانه خود به زشتی و تباهکاری مشهورند. ای مزدا کسی که با تمام نیرو و وجودش بر علیه خواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. بند پنج مرد دانا و توانایی که بنا به دستور ایزدی و یا از راه مهر و عواطف انسانی خواستاران کمک را خواه از هواخواهان راستی و یا دروغ به گرمی پذیرا شود، اون پیرو راه عشا بوده و زندگیش سرشار